به دستت رو رسید اون چیزا؟ بله دستت رو نرمه کنست آقای کازمی چه خبر ها؟ چطورین آقای کاشانی رو امروز نداریم بله خانم چو... زنوزی هم نمیاد آره چون اسمس دار رو ازخواهی کرد البته من ساعتی بسن دو اسمس رو شدیدم 10 شب زده و نستم چیز کنم الان به سنگ میزنم و چی به نست بخواییم برای فونتا دست شما دارم خوب چه خبر هاست؟ قدرکانه بود؟ شما این کلمات قصه ها رو نوشتید؟ آقای یکی نوشته؟ نه، خب هم کار شما مرموزه برسته؟ مرموزه برسته؟ برای موجود شدن، این چی؟ یعنی برای وجود، برای ابراز حوییت Salam, ko so. نه نه نه خواهی شما آسو توی من کسا و هلو برقی ولی وقتی یا اندیش کنم میشه هم برمیش واسه یه چیه میدنیم درود پششان با خود جلسه گرفتی؟ ما خیلی کاره کردیم سجاد بد نمیگیم دلت آبشه دلت آبشه قرن بشه اصل بشه و میامدیم به من رفتی نداره بسه بازارم بیو پاک کنم اون موردش دارم حالا شما که زخمتش رو کشیدیم من فقط دتا دوست امونده رو میکارو رو انجام میده یعنی که کتاب مدیریت استرس هست این برای کسایی که شماها یه قیافاهاتونام شما می‌بینم الحمدلله همه آرامش وجود دارین و استرس و فشاری در شماها نمی‌بینم که ولی به هر حال چون کتاب خوریه نکات کاربوردی داره تکنیک یاد میده چون بهتون قول دادم یه سری کتاب براتون بیارم این اوله نه آره الکینه چیزی بعد ترجمه اکم بیتاسی نشر آغند دانش یکی کتاب مدیریت نبیلیم کی اینا رو خونده؟ این رو کی خونده؟ کروش بزرگ بود کسایی که دنبال کار رهبری و مدیریت هم بهشون پیشته ها بکنم؟ بله یه دو پیشراهاد می‌کنم کتاب رو بخونید که دا که دا داستانی هم داره دراتون بکنید. خیلی کتابه بسیار کتاب خوبیه. نویشتندش یه زنفان مال ترجمه دکتر ابراهیم محمد ابراهیم محجوم ناشرش هم مدیریت فرز این کتاب زبان بدن که خدمتون گفته بودم که حالا جلوه های افکاری درون انسان و بره داخل های بیرونی میگه مال دکتر محمد علی حقیه و افروز آقاکی و تا به خوبی ناشرش چند تا ناشر داشته جدیدن مثل یک اختلاف دکتر پیدا کرده بود با ناشرش من قدیمی تره قدیم رو دارم الان پیشه نشر مهربانه مهربان نشر بعد اون عملی کردن دانسته ها که بهتون گفته بودن مال بنفشارده و البته چند نفر دیگه مترجمش مامک زاده بعد کتاب ارتباط رو, رو داریم که اینم باز کار برای کسایی که دوست دارن یه کمی توی بحث ارتباط ها تکنیکال کار بکنن مال بیتی ای مارتن و همکاران ترجمه مجیدی مولیان نشر مبلغا اون کتابی هم که اون دفعه بهتون رفتم سخ نگیرید اوبر کنید مهم نیست دعنه هستی شید مال ریچارد کارستون کارستون مال ترجمه مهدی قرشدابی یا ترجمه ما دعیه هفته نمی کنم از کرده باشه شما وگر نه همه ترجمه بکنم در چی دارم صاحب نظرم چیه؟ چی؟ نشر آ... فرا... آوند دانش چی آوند دانش یه بخشی با این خطه آوند دانش ای نشه. نشه. اینو نشه. چیز مشکل داره خطاش که بچه رو داره بگیر فرم رو درست نشده باید این فایل از روی موزهر اصلی بعد نرم نرمت داره باید نیست نمیشه است یه مشکل داره؟ باید من هر کاری که انام نشد که نستم عجیبت نشون میداد هفته پیش تو فایل فاکسالا نشون بود؟ پوکیته دیگه یک کارش کردیم که اصلا این پشت کرد روزه من بترم دیدم با بودش خودم چیجوریشون میده بخونم گلش بخونم بگیم من کمک کنم نه کارتون رو انجام میدیم ما کار خاصی ندارم خب یه مورد کنیدی ستان تا این برقرار بشه اینا رو که نوشتین یک خوچیدو در مورد یه قضیه که آقای ابراهیمی هم زحمت کشی در اینجا کتاب هارو نوشتین یادش کردین؟ یک دیگه دیگه تا پاکر کنیم نه، نه، پاکر کنیم اصلا رو ارتباطه بود در روی تو کارم کار بودی که پشنگ روش بعد نیزده، همه کدابایی که برای تو نوشتن کدابای خیلی خوبه هم آره، آقای سجاد عزیز یه دونه در روی با ارتباطات تدرسیم، این رو انجام دویم این رو بخایش کردم خود دوستان چون در روز محارم خوری شنویدی و محارت های این هم بذاریم؟ نه داریم اونو داریم پرسشون؟ اونو داریم فایلاش فرستادم هم فرست همین همین هم رو براتون فرستادم دادم محارتون زخمت کشید و بیرم مارسکس رو بگردتون می خواهش کردم بیایم با در وقت با سه تا مهارت خیلی مهم داریم ما حالا جز سازمانی نیز باید به فردی توی در مذاکره. گفتم که ما سه تا محارت رو حالا یه توضیح هم امروز عمادش میدم به دوستان گفتم که بد نیست خودتون تونو یه تست کنین ببینید در چه سطحی؟ مثلا محارتان شنونتون، بازخورتون یا کلامیتون در چه سطحیه؟ انجام داریم آقا ابراهیم؟ آقا احفاظ آقا آقای شیبان کنیم، آقای صنفان نه هست؟ متاسفانه انجام ندادیم متاسفانه، خب اشکر نده، من وقت اگه کردیم انجام ببینید دوستان خاطرتون هست ما دیگه بحث رفتار رو که تمام کردیم رفتیم به حوزه منابع انسانی وقتی مدیریت منابع انسانی تحریفش چی بود؟ دوستان داکترم گفتیم که وقتی صحبت مدیریت منابع انسانی کنیم یعنی سرمایه های انسانی چرا؟ چون انسان مهمترین سرمایه هر سازمانیه چرا؟ چون این میگن مزیدیت راقابتی تمام سازمان ها به خاطر امساناش چون قویجی تفکر دارن دیده پردازن، خلاقن، نوآور هستن درست که میتون با تکنونجی های خیلی مختلف دره این روبوت هم یکی دیگه, دیگه باید کار بندازه. استفاده از این کامپیوتره، از دستگاه های مجهزه، حالا فنی تمام اینها نیاز به قوه تفکر، ایده خلاقیت و تجربه دانشی که انسان کسب پس گفتیم مهمترین سرمایه تو سازمان ها انسان هستن که قراری که واحد من به انسانی چکار کنه این سرمایه های انسانی رو که در واقع به صورت فردی یا جمعی دارن تو سازمان به دنبال ایندن که سازمان رو به اهداف خودشون بررسن کنار هم هستن با یک روک کرده چی یک کارچ و سیستمی، چی کار کنم اونا رو مدیلیت نه نه. چرا گفتم یک پارشور سیستمی؟ یادتون میاد گفتم خاطر اینکه همه استراتجی های واحد های ما باکس های ما توتراختار پوزه بازاریابی و فروش پوزه در واقع تحوط حسده تولید نمیدونم قسمت مالی منابع این همه در راسته استراتجی های کلان سازمانه و این استراتجی کلان سازمان در مورد بحث‌های استراتژیک و مسائل تجاری هیچ سازمانی نیست تشکیل شده به دنبال سود نباشه حتی امروز اینجیو ها هم در واقع دنبال سود. تسب سود هستند ولی این سوده رو برای کارهای چی کار میکنن؟ در واقع خیلی استفاده میکنن ایجاد اشتغال میکنن ولی در نهایت همه دنبال چه هستن؟ در واقع دوست داریم که هاشه سودمون رو افضایش بده مم. و هر سازمانی با هم خدمتی که ارائه میکنه تولیدی بازرگانی محصول رو وارد میکنه محصول رو به فروش سود گتیم تو مدیریت منابع انسانی بعد از تعاریم در رابطه با استراتژیای منابع انسانی صحبت کردیم گتیم استراتژیای منابع انسانی چیه؟ یا کلی هم ناخرسی یا کلی هم یا خواستن ولی گتیم این استراتژی ها دنبال این هستن که در واقع بیان اون وضایی مدیریتی و عملیاتی حوزه باهی منابع انسانی رو چکار کنم در واقع به خروجی برسونن <تصفح> <تصفح> یعنی چی؟ کفتیم وظایف مدیریتی چیا ها بود شیوانی؟ اصلاف فهموش کرده عشقا نه تو سازمان و, و مدیریت خونیم گفتیم مدیریت چه وظایفی داره؟ همین الان یه مدیریت چه وظیفهی داره؟ هر چی یادت میاد؟ همه هنگیه بینه بله دقیقا یکیش همه سازماندهی. ارتباط و توامل با آدم هاست، گفتیم بحث های برنامه ریزی داریم، بحث های خلاقیتی مابلی داریم، تصمیم گیری داریم دیگه چی داریم؟ انماز نمیگم؟ مدیریت بحران داریم آها، در واقع یکی از کاری خیلی مهم هم، مدیریت بحران کنترل بحث های فشار و استرسه ولی وضایفی، اون پنشتا تا ها، برنامه ریزیه، تصمیم گیریه سازماندهی کنترل و در نظارت بحث هدایت و رهبری و استفاده به این از منابع است اینها وظایف اصلی چیه مدیرانه یه بار دیگه یکی از دوستان اینارو تکرار کنه برنامه‌ریزی، تصمیمی، هدایت و رهبری بله هستی می کنیم گفتی؟ بله نظارت, نظارت بله دقیقا که امروزه توی بحث هزار و به بعد هم گفتان آقا جلگی که دیگه از وظایف خیلی مهم که باید خواهلایی تشم بکنیم بحث خلاقیت و نوابریه یعنی یه مدیر موظفه که در واقع بحثای مدیتی رو ایجاد کنه که این سرمالله های انسانی فضا رو برای بروز خلاقیت چی کنه؟ ایجاد کنه حتی تو اون استراتژیه‌های خاص هم هم گفتیم استراتژیه‌کلی کلی انسان انسانی گفتیم چیا بود؟ نیروهای خوبی جزد بکنه؟ افراد شهرسته رو جزد کنه؟ که چه که با عملکرد بالا بتونم توی یه محیط سالم کار بکنم توی یه محیط مطلوب چیکار کنم؟ کنه؟ کار کنه استراتژیه‌خاص چی بود؟ خواستم گفتیم که آدم های مناسب چسب چه برای آره ولی گفتیم که خواست ها میرون رو حوضه های عملیاتی مدیرت منابه انسانی یعنی چی؟ یعنی اینکه مدیریت استعداد آقا جار امروز سازمان ها دنبال این هستن که استعداد بهش میگن جنگ استعداد ها. اصطلاحشی میگست در سال 1990 اصلا بحث مدیریت استعداد که مطرح شد این جنگ استعداد ها رو دقیقا اپل بهش اشاره میکنه. میگی که آقا امروزه سازمان ها دنبال این هستن که استعداد های نام رو کشف کنن. این افراد با استعداد رو بگیرن وارده سازمان کنن. امروز افراد در واقع هم حوشمند، هم با هوش هرژمی بالا نیاز داریم و نیاز هم داریم که افراد از استعداداشون استفاده هست چون همه ای انسان ها مثل خدا بردن پر از استعدادن پر از در واقع توامنده فقط برشگاه کنن، شمس. اینها رو, رو تشت و توسرشون بدن توامند هر خودشو رو کنن برگردید دوژا به موضوعی که دوستتون نوشته ببینید دوستان واقعیتش اینه که شما برای اینکه خودتون رو توصیح بدهید باید یک برنامه توصیح فردی داشته باشید حتما یکی برنامه تو هم دوره ام بیل بیدید بگر نه اینجیش کار میکنید آقای قاظمی و این مسترزه می که اول خودمون رو بشتاسیم این چیزی که دوستتون نوشته بعد جسممون رو بشتاسیم مراقبت کنیم ذهنمون رو دنبال پویایش باشیم سعی بکنیم که یه ذهنی داشتیم که سلوسط روان داشته باشه یعنی پویا باشه مدام بتونه حل مسئله انجام بده مسائل رو حل بکنه چه تو سازمان شد تو زندگی شخصش پیز و تحلیل بکنه تحلیلگرای خوبی باشین و بعد مسئله روح شماست چون شما باید در واقع این ستستا در کنار هم داشته باشید. روحتون هم یعنی اینکه بتونید یک انسان سالمی باشین یعنی روحتون رو از خشم از حسادت از چیزای منفی پاک بکنین و فقط به چیزهای خوب و مثبت هم بیاندیشین هم, هم می که توی رفتار روتون رو نشون بلید گذشت داشته باشید ایثارگر باشید. آخا خودتون رو کسیف نکنید با چیزهای مادی مادی که من منظورم پول نیستا با چیزهایی که در واقع تو شن یک انسان نیست هر چیزی رو به صورت نوم و اعتدال و اندیشوهای مثبت درست شدش؟ خب کرست هتیم نه چونها کرست هست نه حس همه برای برای همین شما نگران من بزنید یه واقع شما اصلا با فایل خودم بتونم. ببینیمش خدا بخواهیم. اصلا نشان که از فرکت شدیدنه یا نمون نمون. شما ها چقدر برمانه های توصیحی برکتون دارید. یه ها من سکتا مدرون حاضرم. من حاضرم شما تحتیل کنینا. استاد هر جلسه که میگذره. می این اونجا، بعد اونجا در با هم مواحظه من خودم اینجوری هم هر جلسه که می‌گذرم یه ما با من دیگه خیلی ام بی ای بله دارم ولی جلسه بعدش میام باز کلی چیز یاد می‌گیرم نه، با مجمعین باشید که اصلا این یاد گرفتنه هیچ وقت تموم نمی‌شه درسته هیچ وقت تموم نمیشه قرارم نیست واقعیتش هم اصلا تموم بشه نه. نه. خودتون آخراست هستد دو روزشی هرگیم چند درسته؟ درسته درسته آخر درسته درسته درسته درسته درسته خب نه درسته خدا رو شکر الحمدلله حالا ما دوقاتی بیدیم چه اینو برو باید کانشولا پیژ آف هم بذاریم پیژ آف هم بسنید تو آبان رو مید یه میدو که Hvala, bo mos, on je kuzinah, ho hey, dozostam. Kaj je kaj pa bi zan, enjrame men. Aha, ho, ho, ho, ho. Hvala. Hvala. Hvala, čeči? Hvala, čeči? چینی اون زوغ میشه. تمام کتا نمیشه. بعد بزرگشون کنه. استاد اینو 76 درصدونو ببینید بزرگ. کجا کجا کجا کجا پایین پایین پایین نوشته 70 مثبت منفی استاد خب اونا یک بودون یکی چند تا رو بزنید. نه یکی اینوری شکل‌ها رو بزنیم. نه برادر نه چرا چرا؟ چرا دیگه؟ خب یکی هاشم بزنین فکر کنم حالتشه. فکر کنم چیزشه. نه این بد دهن. تو تا می‌دیدی ما؟ تو خوبه ها با شمیدن ناست باستو خب خب بعد از، داشتم در رابطه با این موضوع خیلوانتون رو عرض می‌کردم که در هر صورت شما وقتی خودتون رو خوب شناختیم می‌آین می‌گوید من هدف قائم تو زندگی چیه یه هدف قایی دارم که اکتمالا رو به کماله دیگه دنبال کمالگروی همه ما ها هستیم ولی این بحثت ها یه اهدافی داریم برای خودمون چرا؟ چون میخوایم خانواده تشکیل بدیم اوضاع مالیمون مرتب باشه در این حال خودمونم توسعه پیدا بکنیم که همه اینها ها خروجیشی که در دراز بودن ما رو به اون کماله هم برسونه اون, <تصفيق> اون, اون آقا کمال نه او من منفره کمال معنویه ولی خدا روشو که خانم اینجا نبود مشروف بشین شما امتون آقا هستی بعد شما وقتی که هدفهاتون رو مشرح هست یاری یاریم یه اون خیلی خوب حالا من برای رسیدم به این احراف آقای کاثمی جونم مش... مشکل ما شد شده حل شده ولی من فلش خودم بذاشتم درخ شده خیلی خواهی اینجا مشکله شما برنامه احتمالا برنامه من با شما ست نیست. مرسی. درست. شما علمه دیگه ای بشنیم. با برنامه با سفاسه موچهر خب. پس برای این بزخواهی میکنم. پس برای این بعد از اینکه اهدافتون مشهر هست شد شما میگه خب من برای رسیدن به این هدف چه استراتژی هایی باید داشته باشم؟ بعد ایشون یه چند تا معقبی می‌بریم سوال می‌بذین بفرمایید ما اگه بخوایم برنامه توسیه فردی داشته باشیم بگین چه مرارتی تموکنین بعد با اندار... اول خودمون رو خوب بشناسیم بعد اهدافمون رو مشخص کنیم که شما میتونید که مثل من فکر نکنید بگید اهداف کوتاه مدت رو و کوتاه‌مدت من قایه رو یعنی خواستم یه طعشو باید ببینید چرا چون ما برنامه ما تا لحظه ای که زنده هستیم من زنده ما شما رو نمیدونم من چه عمر چیزی دارم بی‌نهایت آره بی‌نهایت عمر بی‌نهایت دارم برای همین اون بنجامین فقط جوون می‌مونه این عمر بی که شما برای خودتون در ده ده. همیشه برای خودتون توسعه توصحه برید. امروز تو دهه چمسانگی من دنبال یه چیزایی هم تو دهه سی شما ها یه چیزی تو دهه 20 ی تعدادتون تو دهه 10 ده سال اول نیاز همون یه چیزایی دیگه است تو دهه پنجا همونجور که تا میریم تا زمانی که اگر خواستیم این دنیا بریم ولی به هرها تمنی نداره پس بنابراین وقتی که خودتون رو شناخدین، اهداف بلند مدت رو که تا مدت خودتون رو تنگ کردین میگین چه استراتژی باید منو به این اهداف میرسونه استراتژی الگوه، راه نقشه راه خب مثلا میگی خیلی خوب من برای اینکه مثال میزم به درامد ماهی پنجاه ملیون تومن برسم خب باید چیکار کنم؟ قایه سرمایه دارم و کار شخصی انجام بدم یا نه یه بیزینس خودمو بزنم برای حالا این که برم توی یه شرکتی، چه تحصیلاتی داشته باشم، چه توان من یه که میخوام کار کنم، اگر ایشون آیتی منه، چه قابلیت هایی باید داشته باشه؟ شما مدید منابع به هستید چه قابلیت هایی؟ مهندس اکه مدید بازدربانی چه قابلیت هایی؟ دوستانو که برای کار باز بازدربانی میکنند چه قابلیتی؟ دوست عزیزمون آقای ابراهیمی، چه برای کار خودش؟ این قابلیت ها مسئله این که من بیام دوره MBA بخونم یا نه من برم یه سری دوره های تخصیصی شبکه ببینم خیلی خب اینا تخصصی عمومی چی لازم دارم اینکه بتونم خوب ارتباط بگرم بتونم مزاکر کننده خوبی باشم چون با اخیلی چیزها رو بفروشم خودم پرزنت کنم خدماتم رو عرضه کنم درسته؟ دیگه چی؟ بیام برم دوره های تحلیلی و دوره های حل مسئله ببینیم چرا چون هر روز از صبح کلا می‌شیم ما جلو خودمون اصلا موانعی می‌بینیم که باید اینا رو جلو پام بذاریم و مسائل رو حل بکنی و حالا این قضیه دیگه ولی یادتون نره توی اینهام شما نیاز دارید مثلا میگی برای جسمم نیازم تغذیه خوب داشته باشم ورزش بکنم ذهن آرامی داشته باشم پس بعد آروم شدم بهتر تمرکز کنم تمرکز یکی از راههاش نماز یکی از ورزش های مثل یوباز مدیتشن <تصفيق> که دوستتون نوشته یکی از تکنیک هاشه و این تکنیک و قابلیت حالا همه اینا که شبه ما بهش نمیرسیم میان بعد هم برنامه ریزی می مدیریت پروژه تعریف کنیم میگه آقا آوا من امسال نیاز دارم یه دوره تخصصی ببینم یه دورهمی جیب ما نگاه میکنم زمان نگاه نگاهکن چون ما داریم موازات کاری که انجام میدیم پیش میدون حالا هر چی که میگذره من تو اون حرفه خودم چی میشم تماماً میشم حالا دوست دارم کارشناس بمونم بعد کارشناس چی بشم در نهایت ارشد مدیر بشم مدیر تمام خیلی مدیر تمام که شدی آقا آقای کاظمی عزیزم که شاد علنن باشید رهبری سازمان رو براخته بگیم. بعد موقع باید برید خودش رو برای رهبری در واقع توامن با کنیم. حتما مدیرها باید جنبه های مختلفه دهند. چون بحث های مالی، اینکه شما حتما مدیریت مالی باید بلد باشین دوستان وقتی مدیری، حتما باید مدیریت مالی قرار، الو با اینکه مدیریت اجرایی بدونید، مدیریت مالی هم بدونید. چون شما باید بتوان تحلیل بکنی الان وزید شرکتتون کجاست؟ الان از روی مثلا یه گزارش مالی شرکت مثلا سه سال گذشته روند رو نگاه میکنید گیراش رو در میری و بلد باشی تحصیل تحلیل کنید اگر بلد نیستی چه کار بکنی؟ حتما مشاور بگیری یادت بده یا اینکه از اون کمک بگیری همیشه مثل مباحث حقوقی که ما کمک بگیریم و مدام این ادامه داره یه زبان بلد بودیم می‌ریم زبان دوم یه زمانی فقط با انگلیسی زبان انگلیسی برام پیدا بود نکته نه عربی هم خیلی زیاد دیدیم نه باید مثلا فارسی هم دیدیم یا نه اصلا با تلفن نمی‌گله تا خاص رو در این کشور بدون چون ما با اونها یه سری مراودات داریم ها بساری به در واقع اون نیاز شما داره برای اینکه بتونید در واقع این برنامه موجود شده آقای ابراهیمی من منظور شما را اینجور بردارش میکنم که تشت دنباله اینه که شما یک قوییت مشخصی داشته باشید یادتونه که جلسه اول فکرم اشاره کردم اون برند شخصی شما یک برند سازمانی دارید اون برند شخصی دارید برند سازمانی من در حال حاضر استو شبکه هست همون برند شخصی چیه شعبانیه؟ عنوان یک مشابه من مدرس حالا رو اینا باید موقع چیکار کنیم؟ هی منظور بدیم و اینا رو تقویت کنیم و گفتم که شیبانی برای اینها لباس پوشیدنمون، رفتارمون، دوستونمون، کلامی که به کار می‌بریم همه اینها چی می‌کنه معنا پیدا می‌کنه نیمی توی بازی شهروری بپرین با این شهرورک ها پسرها رو داده شب یادیده میخواد به دوست شما شهرورک ها یه دونه زشته این یعنی چیمه تو خیابو دو تا آدم داره رد میشه شما اگر داری کار بازرباری میکنه فقط کافی میموشیم شما یک دیدیم اون معندسی اما رو سه ایم رو دیدیم که یه شهرورک درش میبارید یه دونه چیم میره تو اپارتمند ترم خ اون درماغت بالا ساختمانتون رو اوکی کردین، وسایل ورزشی عرضشی گذاشتید چه میدونم، وسایل غذاخوری گذاشتید، برید کباب نوشه جام کنید عزیزم لباس بپوش، یا تیشرت و یا شواجی بپوش چون شو یه تو آسانسور یا همسرات رو میبینید میشه یه شهربان با یه دونم اصلا هم، دو میرید زشته بعد ادعاه دونه که دکترا دارم ادعاه داره که من نمی دونم پزشک روانشناسم این چه طرز یعنی ما موظفیم برای اون بنده و هر چون موظف کوشش برای تو چون تو خوناتون آزادی هرچند لخت مثلا بپوش لخت باش اصلا مالی نیست وقتی که از اونجا داریم میای بیرون که فرد افرادی با تو در تعامل هستن میشه چی همون که گفتم اون هدف موقع مهم شما دیا داره برمیگرده به اون عقده‌های آزادی و اینا چون من اغدای. خودم تا حالا با شرکوپوت نرفتم میرم ولی خب خیلی ارا می‌بینم آقا که... از شما عهده‌تر من باید باشم که نیستم ببین من باید باشم که خانمم دیگه درسته آقا کاظمی نه این برمیاد رو به طرز تفکر شو آزادی تو اینا نیست تو پوشش پوش منو چادرام بهم بدم عمو چا واقع اون مهم نیست مهم اینجاست مهم نه، حتا اون چادر رو بده که چادر خوشگله سر میکنه. آ عربی یا از لوکی داره نوارده. چش کنه؟ زیباش بکنه. تازه یه جشن هم میتونه واسه اون اینمون یه گل سینه و بعد شما میگه وای چادر خوشگله. اون مهم نیست. مهم اینه که شما تمیز باشین، مرتب باشید، شکل تو مطلوب جامعه بخوسته، به ها همیشه میگن دوستان، دارم عرف های جامعه رو رعایت کن. من دوست دارم که مثل اروپایی‌ها باشم. رفته اون رو انجام بده نه. این طرز تفاید تو ما قضاوتی نمی کنیم تو هر کار دوست داری ولی یادت باشه اگر داری تو ایران تو امریکا تو هر جای دنیا زندگی زدیگی میکنی این عرفای جمعه رو بر رعایت میکنی اون آبم هم همینطوره اینجور اینجور که شما فکر کنم اونجور رعایت نمی کنم اونجور هر چیزی یه نرم خودش رو شما دیسکوی میرید سطح دیسکوی باید مشخص باشه. دیسکوویی میری که انوز شیاطیننا اونجوری لباس میکشید یه دیسکوی میرو معمولی که دیسکوی کلاس دارتر میره یه جور دیگه اونجا رسمی تر اونجا افراد با لباس اسپورت وتیژ دیگه میمثلشیتون یه دونه اینجا بین میشون چند دوم برین آره یه دونه حرفه داره که اینجا داره اینجاش داره خلاص همه جاشون خلاصه یه چیز ماشوم برای این برین چقدر هرکی من رفتم س یه که کلاسام آییمنده دختر خانمی تو کلاسم حتو متأخر بود بعد خب معلمه مصره می‌کنه علط تا یه حدی شما بفهمی این چیزا خبری که من محاجهت نیستم شما متوجه نشی اینجا نجاش تیر زده خب بقیه مام خیلی این دختر خوشگل جذاب بعد خودش گفتش که دنبال کار بود من نتونستم بهش بگم چون یه کمی برمیگشت به مباحث فکریش فکرم شاید اذیت بشه و این ظرفیتش جوان بود نداشت ببینیم عزیزم، شما دارید توی ایران زندگی میکنید اون جوری که طول میگردی، هر شرکتی آوه. چرا؟ چون تو مصاحبه؟ میریم الان با هم مطالبه توی مصاحبه من به ظاهر شما، به اون سیبیلا اینجوری آقای ایتیاز زنگی... میده آه، برای مهمی شاید ازش بپرسم چرا این؟ بیترون رو برخوای دروس های تیمونی سبرای اینجوری خوشت چجوریه چی میخوایم فکراش رو ببینم ولی به اون اهمیت میدم هم به نوع پوششه طرف اهمیت دار. حتما شما هم تو استخداماتون اهمیت نمیدین؟ خب حالا فکر کنیم با اون یه ظاهر شاید یه شرکتی خوشش بیاد ولی چه شرکت؟ آیا احساس عملیت میکنی توش؟ آیا این تیپ رو میپسنده؟ هست داشته؟ حتی ما تو ایران داریم که خیلی خواستن ولی میخوام بگم اون که فرضاش امکان داره مطلوبه من نموشه پس هرچی که مد میشه منم خیلی دوست دارم کشل کنم گوبر کنیم یکی از آرزوان میده که در یه سه می آقای کازمی ما اون را خیلی دوست دارم خب اینو دوست دارم ولی الان موقعش نیست <تصفح> ها؟ الان موقش نیست شا با شاید رو با باید بازنی شهستشم کار رو سکن ترتیب کنم بعدم تو خونه باشم کار بکنم خیلی هم برام مطلوبم باشه ها؟ الان مطلوب جامعه من نیست پس بنابراین این عرف های جامعه عرب پیوم برنامه توسعه تون که میبینید برای خودتون یه چیزایی متصبر میشه یا تو مجرد با, با عرف های جامعه هرکش بپنید چون زیره چی هستی؟ زهربی نیم. و بعد متاسفانه آقای کاظمی شما به ما بگید. آیا درست دیگه نه؟ شما و آقای سلیتانیون رو آقای گذشته ما دوستان با هم پاک نمیشه. درست میگم؟ گذشته ما, ما پاک نمیشه. گذشته پاک نمیشه. هست برد. یعنی اینجوری نیست که ما اگه امروز یه خطایی کردم امین حسین شما یادت بره. من ده سال دیگه مورد خطار ندم، اصلا توبه کردم اون خطارم نمی کنم، توامر شدم اصلا دیدگاه مور فرق نگرشم عوض شد ولی <coughs> کسایی که من رو میشنسن، حالا اونها که نمیشنسن، مثلا شعیبانی من نمیشنسه میاد درماده آقای سلطانی سید میگه که من میشندم من تمام اطلاعاتیشون رو از روز قندق برای شعیبانی میگرد تا به این روز ندیدین ایرانی هاشو خیلی حرف میزن. من... و بی جا. خب آقا ماجرهای گنداره اون چی ربطی داره به الان که مدیره تو داریم سنیشون میگی؟ اصلا شاید این دیگه اون آدم نباشه چرا چون به مرور تغییر میکنم یه دنبال یه تغییر تدریجی و پیشرفتیم دیگه ما انسان ها میخواه شد برای همین برای همین میگم که خیلی کارهایی که دوست داریم تو سنی و واقعا هم حق شما هست توی سنی انجام بدین نمیتون متاسق باید یک جمع مدیریتش کنیم که برای خودمون باشه خیلی شخصی باشه اگران خیلی علاقه ما هستیم یک کارایی نمیتونیم باگران بس برنامه حواسمون باشیم اون خب و بعد دیگه شما پیشرفته خودتونو میکنیم فقط یادتون باشه توی اون برنامه که میریزی باید نظارت و کنترولیت چی داشته باشید دائمی. دائمی یعنی ببینیم که آقای کازمی ما امسال برنامه که الان آخر سال 93. آیا واقعا اون برنامه‌هایی که اول سال برای خودمون ریختیم سال تحلیل تو سررسیدیمون در نمیشیم بهش به رسیدیم؟ شما که رسیدیم چون یه دوره بیه خوب دارید میان خدا رو شده اون پیش افتا تو خودتون میگه خود اون برنامه ها تصمویر پیدا کرده راض مالی را تحصیلی الاز شخصی و به اون چیزا رسید اگر نرسیدین و اممس چه کار کنم شاید بر هر سه ماه ارزبی داشته باشم هر سه ماه یه بازنگری داشته باشم. اون جایی که کوتاهی کردم هیچی کار کنم تعریف کنم و جبرانش بکنم. این کلامم که دوستتون نوشته که حالا سطحی ترین حالا این یه جمله است ولی واقعا دوستم این بسیار عم داره. و تاثیرگذاریش بسیار زیاده میگن که دوست نداری قربان محبت زبانه یعنی میگه اینقدر تاثیر داره تو حتی از یک کلامی شیوا استفاده بکنی و یادتون هم باشه جلسه پیش گفتم یه مدیر هم باعث باشه مدیر گفتیم میتونه رهبر خوبی هم باشه تو اون رهبری گفتیم قسمت متمایز چی بود؟ کامل متمایز چی بود؟ بله، هارمونی نفوذ و قدرت یعنی نفوذ بردیگر ها و قلبها نفوز کنه دیگه یعنی شما بدونین که اجباری داشته باشید آشقانه کار کنید اون کار رو انجامید حتی بلندید دلیلش رو بنفرسید منطقه برای داشته بشه پس برای رسیدن به اون درواقع مربیگری که حل مسئله بود بهش اشاره کردیم و اینکه اگر بتونیم توی مدیریتم یه رحبر خوب باشیم میدونید که این کلامه بسیار چیه تحصیل بذاره قیر از اون که برداری از رفتار رهبرا کلامشون هم میتونه چی باشه بسیار تحصیل بازن باشه حالا این کلام چجوری به دست میاد قابلیتش مثلا بعضی میگن با کتاب خوندن نه دیگه یاد... ببینید شما اولین چیزی که باید یاد بگیری فرن بگیر, فن بگیر. درست. یعنی که بتونید با صدای رسا با ریتمای مختلف برای اینکه سخنوری کنید یه چون باید صدا تو بالا یه چون باقیه چو میخوابه ها همچه اینجون رو سو برد بکنه حتی با اون باره مولی کنه ترونی خستشون میگه اصلا خسای سر میره یه جای دیگه فکرش و فن بیان بدونید بعد دایره لغاتتون رو زیاد کنید و بعد کتاب های تاریخی, بخونید. تاریخی که، در واقعه از جملات درست استفاده کرده ببینیم کتاب هایی که نویستنده های قابل اعتماد نوشتن مثلا در مورد تاریخ ایران بعضی از مترجمه یا نویستنده و تعریف ها تعریف بیان بسیار شیوایی ها مثلا آقای آل یاسین، آقای قرشده های اینا مترجمه های خیلی خوبی هستند شما کتاب های اینا رو بخونید اینها جملاتی که دارن به شما کمک می‌کنه حتی تو نوشتارتون هم خیلی کمک کنه شما این سه جملات رسمی یاد بگی هر کلمه‌ای رو که بلد نیستین سوال بکنید من خیلی وقتو کلمات فارسی در واقع می‌بینم تو نمیفهمم البته بعضی‌هاشون هم روش عربی داره یه بعضی از اساتید هم می‌پرسم البته اونا نزدیک به همین با هم حرف می‌زنن خیلی وقت‌ها مثلا منم دهخو داشم همیشه مثلا یه دایره تو معارف داشته باشید کنار خودتون ها که خیلی از چیزایی رو که نمی‌دونید برید نگاه بکنید به شما کمک میکنه دیگه درسته الدار پس... و معرف خودایی که دو بازار ساسور شده است یا هستش هم نسخه اصلی بالاا ما یه قدیمی شده داریم البته ما چون من اونجایی که هستم کتابونه خیلی دقا قابل ارزش داره همه چی منابع اونجا داریم. ولی هرچی که هست شما یه دونه برای خودتون حالا. هر رو که هر کسی رو که قبول دارید یعنی استاد باشه دیگه ببینید شما برای هر چیزی که اعتبار داشته باشه اون اعتبار مهمه یه دونه برای خودتون بگیریم بذاری اگرم توی سازمانتون هست برای کل سازمان که همه بتونه استفاده کنه اون باعث بشه با با با که شما با کلمات بیشتری آشنا بشی معانی بیشتری رو بدونی بعد بعد مدام درخواست بشین امیر حسین آقای بهروار کی پرزنت کنین کارای سازمانیتون رو جلستات رو شما سبتین بشید این صحبت کردان ها به شما کمک میکنید مجبورش یک کلمات بیشتری بیان نیزید قشنگ صحبت بکنید رهسا و شیوا صحبت بکنید تو پک نزدید، ترس نگیرد، جمعیت شما نگیرد برید تو کنفرانس که مرتبط با تحصیلاتتونه مقاله بدید، ارائه مقاله بدید برای تو به شما کمک باندید با یه جم انجامن هرفیه ها، مثلا حوزه آیتی، توضع بازرگانی، انجامن مشاوران مثلا من هستم یا انجمن مدیران من و انسانی ها، این ها چیزایی که یا مثلا انجامن های در واقع مدیران اجرائی میتونید بگید خلاصه عضوه این انجامن ها اونجا هم حرف بزنید تجاربتون رو در واقع بهترین کارم هم اینه که اگر که مقاله هم نمیدید، گاهی بیان تجربه خودتون رو تو کار بس یک کیس در بین اونجا مطرح کرد. حالا یه تجربه موفق یا ناموفق. فرق نداره چون هر دوتاش تاش می‌تونه آموزنده بشه. جانم. یه حدیث هست که من حالا چتل حدیث آو، حدیث اینبر رو حفظ کردن، چشمه‌های حکمت و معرفت از قلب اون سرچشمه می‌گیرند و بر زبان اون جاری می‌شورد. یکی از بهتر اینکه شما این کارو کردین؟ شما این کار کردی؟ خب آفرین. خب اینم یکی از تکنیکایی که حالا آقای توش موفق بود. و این خیلی آفوره چون من خودم انجام دادم دیدم چجوری هستش وقتی که شما محفوظاتتون رو در یک تو یک زمینه ی یک سطحی بالا میبرید اون محفوظات شما که اول حسش کردید کم, کم تبدیل به درک میشه و درکه وارث بشه خود به خود جاری میشه به زبونی که بله بله 100 درصد فقط نیاز به این داره که شما مطالعه کنید و هر جایی هم جای سوال داشت مبهم نذاریدش برید چیکار کنید سوالا رو به جواب برسید ادامه دادنش مهمه بله, بله، ب... به جواب برسید یوه مخاطب بله چه کار دیگه میتونید الگو برداری کنید کسایی که خیلی قشن حرف میزنن چه کلمتی استفاده میکنند، چه شیوه هایی برای حرف زدن و اراعهشون دانند، اونها هم خیلی به ما کمک میکنند، یک کارش الگو برداریه ولی مثلا کتاب کلینر دیمنر رو من یادم یه من دوره راهنمایی که بودم برای همین فن سخنبری، یکی از در واقع معلم های ما گفت برای بریم این کتاب رو بخونیم کتاب بخونی کتاب سخت یا ها درستش نه و اصلا درکش هم سخته درست. این کتاب... کتاب های سنگین بخونید بر اون که شما رو چکارم کنه با همین که میکیم با کلمات مختلف و کلماتی که جاری نیست امروز ما ماگران مثلا بعد امیان صحبت میکنم با شما خوب ولی شما هر چی میخواین تو این حرفه پیش برید و چه کار بکنید؟ باید هی داره لغاتتون رو بیشتر کنید داستان تاریخی بخونید کتابهایی که اعتبار دارن رو مطالعه کنید حتما هم از اون دورتون معرف ها استفاده بکنید بسیار به شما کمک میکن خب اجازه میدین بریم سرلب صحبت هایتون حرف خب دوست ما گفتیم که اجازه می‌دین تختر رو پکنن؟ خواهش می‌دین دوستان، ما یکی از مباحث اصلی یا فعالیت‌های کلیدی منابع انسانی که جلسه پیش اول مورد رو چیا بود که انانم در مورد شرف زدیم؟ استراتژی‌های منابع همیزنی. انسانی بله، ببینید که یه سری فعالیت‌های کلیدی در درخوز منابع انسانی وجود داره که اینا بهش وظایف چی هم گفته میشه بزایف عملیاتی عملياتی. بله عملیاتی مدیران منابع انسانی که با تیمشون انجام میدن اولین بخصی رو که داشتیم استراتیجی های منابع انسانی گفتیم این استراتیجی ها باید در راستای استراتیجی های سازمان باشه یعنی چی یعنی توی تمام مراحل برقیه مراحل که امروز با هم صحبت میکنیم مهمه که شما چه سراتجیه هایی دارید دوبامی مبقی هست مثلا امسال برای سال نوید سازمان شما میخواد میرو جزب کنه یا نه یه تعدیل میرو داره میخواد مدیریت عمل کرد داشته باشه به صورت علمی یا نمیخواد داشته باشه یه برنامه رو برای خودش داره دیگه دوبامی چیز بح ببینید این بحث بحث خیلی گسترده ایه به طریقه تحلیل شغل و اون قسمت هایی که شما فقط تو ذهنتون بشینه و حداقل مفاهمش براتون قابل درک باشه رو براتون رو بردیم. این استلاحاتی که اونجا میبینید شغل، پست، وظایف، وظیفه، جزع شغلی اینا بحث هایی که تو شغل مطرحه کسی که میخواد بیا طراحی شغل کنه میگه آقا جان این جزئی ترین واحد کارو بهش میگن جزء شغلی. درسته؟ <تصفيق> میگه که وظیفه یک فعالیتی که برای شما تو حوزه کاریتون تعریف شده و در واقع شما باید به یه هدف برسید. وظایف متشکل از چندین وظیفه هست پست چیه؟ پست تو چیه؟ آقای شیبانی هستم. من من ما مشاور پستم مشاور هست سازمانه. شما چی هستید؟ مدیر عامل منتکل. دیزاینر هم دیگه. طراح. طراحی. یعنی پستتون طراحه. وظیفتون چیه؟ یکی از وظایفات بگو. طراح بودن میشه طراحی. آه، وبسایت. یکی از وظایف شغل در واقع. اه. حالا شغله چیه؟ اون باکس تست. باکس هست که در واقع ما میگیم که مثلا باکس کارشناس باکس چی؟ مدیر اینا اون چیزهایی که شما به... چی هستش؟ اینا شغل کارشناسی دارید، شغل مدیریتی دارید که حالا مدیر چی هستید بازرگانید کارشناس آلتی که اینا در نهایت از یه چی واحد تی داره در آقا نشهد میگیده. درسته؟ درست؟ اونجایی که ما میگیم که بحث در واقع شغل رو داره میکنیم میگه که این آقای آیتی من ما که طراح حالا پستش تراحه هست یه سری وضایف داره که این وضایفشون تو اون شغل مدرح شده. مثلا شغل طراحی... حالا تو اون جایی که توی سازمانه ایشون وزایی چیه مثلا تراحی وبسایت دیگه چی داری؟ وقت شناسی مثلا نه، وقت شناسی شده آه... وزیفه آه... دیست آه... کارت... آه... کارت چیه؟ اپدیت آه... آب... بودن، هر روز باید اپدیت باشن، یکیش این هم نه، بروز کردن وبسایت سایت ویب سایت سازمانه و این مسئله دیگه، درست؟ ها، توی چه پستی؟ تو پسته تراح و در چغل تراحیه که ما حالا میخواهیم بگیم اگر اجازه بدیم این رو بدارم کارشناس آیتی که شما کارشناس آیتی تو باکستتونه ولی تراحی پستتون تراحه و یه سری وظایف دارید انجام بید هر کدوم از اینا یه وظیف هست آقای سلطانیان شما پسته چیه؟ کارشناس مسئول امور اقتصادیه کارشناس مسئول امور اقتصادیه توی چه شغلی یه باکسی شما اونجا دارید؟ اون چیه؟ ردیب سازمانی من کاشو از مسئول امور اقتصادی کارم نظارته, نظارته. نه ولی یه واحدی دارید شما نه یه واحدی کنفه اون باکس که واحد است محابنت امور مشترکی محابنت امور مشترکی برای این برای این مشترکی بر آقایی کازمی ازدم شما پستتون چیه؟ با آهان ایشون در واقع مدیر توی در واقع شغل مدیریت ارشد سازمانه ها حالا کد عضو هیئت مدیره هم باشه اون هم در واقع پستشه درست پس ما توی شغلمون یه شغل داریم یه پست داریم یه سری وظایف داریم وظیفه داریم و یه جزء شغلی داریم درسته میگیم که بازاریابی واحد بازاریابی درسته؟ این واحد بازاریابی یه وظایف بازاریابی توش تعریف شده درست؟ این شغل است مدیر بازاریابی یه پسته کارشناس بازاریابی یه پسته درسته؟ حالا مذایفشون چیه؟ مثلا دواقع حضور توی غرفه های نمایشگاه هست دواقع پریزنت کردن و تحییه بروشورهای محصول یا اون خدمت هست مثلا کار بازاریابی یه رو دارم میگم تحویل‌های در واقع بازار تحقیقات بازار رو بعد انجام می‌ده اینا وظایف اون واحده که در واقع توش تعریف شده حالا اون جزء شغلی که در واقع میگه کوچکترین بخشی از واحد کار هست در واقع شما عزای مختلفی توی شغل براتون تعریف میشه. شما تا مثلا وظیفه اصلی داره بقیهش خیلی فرعیه. اون ترین کاری رو که شما دارید میکنیم یه واحدی از کار هستش. مثال میزنم، تلفن جواب دادن به مشتریان داخلی. یعنی شیبانی به عنوان یک تراح امکان داره نیاز باشه که پاسخ یه سریم مشتریان درنف سازمان که میشن مشتنی داخلی پاسو خود. این یه جوز کچی که از شغلشه همون تلفن جواب دادنه خب بفهمتون یک جوری راحترم سلام سلام, سلام. پنیشم بچه داره خوب استی؟ خوبیم میخوام شیرینی چی شد؟ ما گفتیم <تصفح> <ما بفهم. تصفح> از ترس شیرینی قیبت نگفتیم باقا با با بزنی بزنیم با شیرینی نخواست ایمیل هم نداده او برایش به <تصفح> <تصفح> <تصفح> خیلی خوش اومد توی <تصفح> سازمانی یه چارت داریم چارت سازمانی داریم که اون چارت پوست ما رو معلوم میکنیم میگه که آدم تو این پوست ها قرار میگیره بعد برای اینکه وضعیتشون رو سازمان مشخص بکنیم ردیف میدیم به این پوست بعد این دوتا به همفصل میشه تکلیف این شغل و پست مشخص میشه اینا پستن، اینا پوستن که اگر ردیف مثلا میگیم که اون کی میتونه این پوستو بگیره؟ کسی که ردیف سازمانیش فلان بشه <تصفيق> مثلا آرندی ما رو کی میتونه بگیره کسی که ردیف سازمانیش کارشناس مسئول فلان باشه اینجوری میتونیم تعریفش بکنیم برای هر که میشنم وزیفهش مشخص بله بله ما اینجا در واقع یه واحد بازربانی داریم یعنی یه شغل چی داریم؟ بازرگانی داریم. برد. حالا تو بعضی از ساختاری ها شما ببینید که به جای این بازرگانی نوشته مدیر بازرگانی درسته؟ برد. برد. درسته؟ برد. برد. این مدیر پوسته کارش چیه؟ شغلش یک کار شغل بازرگانی داره انجام میده حالا با یه سری بزاری که تو هر سازمانی چی میشه؟ مشخصا برد. در موردش ترین میشه در واقع داره یک تراحی شغل یا مشاقل میاد که بحثای در واقع محتوایی کار رو داره و بحثای کیفی بحثای محتوایی رو نگاه بکنی برمیگرده به آن چیزی که شما دانشی که دادید رفتاری که میکنید مسئولیت ها وظایفی که به احتتون هست پرداختی که به شما به عنوان حقوق و دستمور مذایع جبران خدماتتون میشه این میشه محتویی کار میاد میگن که این شغل مدیر در واقع چه تواملی هایی میخواد؟ چه مسئولیت هایی رو داره؟ درسته؟ امید. و حالا سطح پرداختیش در چیسته؟ مثلا کف بازار رو میگیرن، حالا بسته به اون کف بازار چکار میکنم یه تعییم میکنن حالا اگر سازمان شما شاه استثاله ها باشه، مطمئنم های بالاتری هم داره، اگر نه یه حدی حد نرمی رو در نظر میگیره چه بیزینس های شخصی آقای کاظمی میاد چکار میکنه هم وزارت کاری رو در نظر میگیرن حالا برای پستهای مدیریتی بسته به اون توافقی که با مدیر میکنن و بعد بحثای کیفیتشون میگه کیفیته مورد نیاز جهده انجام میکن آقا برای اینکه شما یه مدیر بازرگانی باشید باید چه توامندی داشته باشید احراز چیه این هستش که تحصیلات مرتبط داشته باشید زبانه خوبی داشته، مثل زبانه انگلیسی به دونید در واقع مکاتبات تجاری رو بتونید انجام بدی و بفهمی و بعد پوزه های دوره تحساسی مدیر بازرگایی، اگر تحصیلات مطابقه دیده باشی بحثای بازاریابی و فروش رو بفهمی تعامل با فرهنگ های سازمانی بین المللی رو بفهمی و بلد باشی پس بنابراین یه سری تقامندی ها قابلی امکان داره که غیر از زبان انگلیسی مثلا استفاده از کامپیوتر هم باشی در واقع استفاده از در مفضوع های و بحث های تکنولوژی فنابری های بروز هم برای شما مطرح باشه اینا همیشه همه میاد توی چی؟ بحث کیفی کیفیه انجام کار خیلی خوب شما اگر زبانت خوب باشه بلد بشه خوب با کامپیوتر کار بکنی حوزه تخصصی هم دانش و تجربهش داشته باشید اینا میشن چی؟ در واقع آنچه که برای این کار لازمه. حالا شما تو بعضی از این وضعیف امکان داره کم داشته باشین موید من رو بنسانیم به شما چی کارم کنه؟ پوسنگه. یه دوره در واقع بو تجاری برای شما میذاریم که شما تو اون حوضه توامند ترجیم. صرفانه میکنه همه اون توامندی ها رو در ما نباشه. ولی بخش اعظمش که بتونیم اون کار رو به سمر برسونیم باید چی کار کنیم اون رو داشته توام وقتی میخوان که بیان یه شغله رو طراحی کنن میان به بحث محتوایی و کیفیش توجه میکنن این شغله چه توامندی هایی میخواد چه فردی با چه عمل کردی با چه مسئولیتی و چه پرداخت خوبی باید در بهش صورت بگیره توی کار یا توی شغلایی که در واقع معررف کردن این روش ها این چارچوبی که براتون نوشتم اونایی که میان تراحیمش واقعا انجام میدن بسته به سازمان شما میگن که شاید خوب باشه که در واقع اون شغله رو ساده بکنیم ساده یعنی که تخصصیش کنیم مثلا تو کارخونه خیلی وقتا این اتفاق میفته میان چیکار میکنن؟ یه کاری رو تخصصی میکنن اون آدمه را یک آموزشی میدن با این دستگاه حرفه هرفه کار بکنه مثلا برای پرس، برای قالب زدن فقط من کنم همینه هم؟ شما مثل مثل یک مدیر یک کارشار هستیستی که خیلی کار بلد میشه فقط کار من چیه؟ همین کاره اصولات تو بحث های فنگی این ساده کردن کار چه میشه؟ ازش استفاده میشه یکی دیگه گردش شغلیه گردش شغلی اصولا به طبع اینه که اگر شغل های مشاوه تو سازمان باشه مثلا میگین کس که تو حوضای کار میکنه خیلی وقتا هم بازاریابی هم میتونه کار بکنه این آدمایی که تو این دو تا در واقع شوک هستن میشه چکار کنیم جابجا بکنیم جا ها چرا حالا این کارو میکنین خیلی وقتا نیاز و شماست میگه ببین من یه مدت تو بازرگانی من خیلی کارم روتین شده اصلا خصشام نیاز به تنوع دارم یه موقع سازمان یه نه ببین من اصلا یه واحد فروش دارم یه واحد بازرگانی میخوام اینا رو با هم ادغام کنم این مدیر هر دوتا رو در واقع کنه، ساپورت کنه پس بنابراین گاهی امکان داره که ما ساده بکنیم کار رو گاهی بیانیم در واقع گردش شغلی, شغلی یا گاهی به صورت در واقع توصیه شغلی یا تقوییت شغلی و میگیم توصیه شغلی یعنی شغل شما رو چکارم کنیم در سطح افقی گسترشش میدیم یعنی چی؟ وقتی دوید بحث آرندی رو میکنیم یه سری وضایی به این آرندی اضافه میکنیم چکار میکنیم؟ در واقع کارش رو بسترده‌تر میکنیم برای اینکه فرد پویاتر بشه مجبور بشه؟ آره یه بخش تحوی توسعه آره بخش تحوی توسعه، مثلا اصولاً روی کارخونجار ام. یا توی شرکت های تولیدی چون محصولاتی رو دارن که مدام باید به روزشون بکنن رو بهبودشون بدن و محصولات رو توسعه بدن یا حتی در واقع تنوش رو زیاد کنن بخش آرنگی دارن توی شرکت های یا سازمان های دانشگرم باز بخش توصیه وجودشون خدماتیه فرمه نمی کنه قصدگی داره که حالا این واحد چقدر براشون ازدشمن روشه چقدر سایز بده. انجام ساز تک قسمت تو شغلی پس بنابراین افوگینگ اتفاق میفته یعنی که شما تو واحد تو کاراتون یک معنی چی میشه افسایش پیدا میکنه خستگی در واقع کارکونا اونجا خسته نمیشن یکم تنوع وجود داره مجبورن خودشونو رو به روز کنن پس بنابراین وقتی ساده شون میکنیم یه حزینه کمتریم متقبل میشیم چون فرد فقط برای اون کار خاص هم در واقع آموزش میدیم یه کار سا... کارو ساده کردیم آموزش رو برای اون بخش بهش دادیم و یه حزینه کمتر توی گردش شغلی اصولا یه جا جایی رو در واقع وقتی شما اتفاق میفته افراد کمتر سازمانو ترک میکنن وقتی خسته میشن روحیهشون یه کاری براشون روتون میشه نیاز به تنوع دارن در واقع این قضیه بهشون کمک میکنه. البته اگر امکانش باشه شغلای مشابه داشتم. مثلا بنده اگر که مثلا آدم حرفه تو حوزه منابع انسانی یه دفعه نمیتونم بپرنم تو مالی بشینم. نگم اینکه رفته باشم بدم دکترا مون تو حوزه مدیریت مالی گرفتم ها؟ یعنی در واقع تخصصم رو چیکار کردم؟ افسایش دادم و در یه حیته کاری دیگه رفتم. ولی به صورت نو اگر تو واحد منابع انسانی میتونم مدیر آموزش بشم. چون یکی از زیر مجموعه بحث منابع انسانی تقویه شغل شخه میگه قنه سازی شخنه که خیلی وقتا اینجا میگن عمودیه عمودی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در واقع داری مسئولیت فرد رو چکار میکنه افزایش میگه همون اتفاق به تو بهتون گفتم. یعنی اینکه واحد بازاریابی و فروش درست یهو اتقام بشن با هم یا میشه بازاریابی و فروش با هم و یه فرد اینجا قرار می‌گیره با مسئولیت هر دو تا واحد. پس به صورت در واقع چی شده؟ غنی شده. یا مثلا بخش تولیدی، ها؟ بخش تولید رو که داریم، یه مدیر تولید داریم. کارمون در یه وسعت کوچیکتری بیده. حالا دو تا سایت تولید داریم، ها؟ دو تا کارخونه داریم، دو تا کارگاه داریم اگر هنوز اون آدم مدیر تولیدی بود رو بخواییم هر دوتا رو در واقع داریم چیکار شغلش رو شغلشت قریصازی میکنیم یعنی مسئولیت هاش رو بیشتر میکنیم و در پست بالاتر قرارش بینیم مثلا موقع فقط یه سایت در مدیر تولید دو تا سایت هست این معروف تره روش های طراحی شغله هر کدومش رو برای تو توضیح دادم اون یکیش گفت مستاد من فایل را چک نکردم این هم ایمیل کردی فایله دیگه هم داشت چونم؟ بله بله براتون برای تون ایمیل کردم ببینی دوستان به بخش من نمیدینام الان چرا نشون نمیده چی ها واسه بابا شما ده؟ چرا چارتاشو گفت؟ نه، باید یه داشتم خب، حالا اشکالانه، خود هم بعدتون توضیح میگم ببینید دوستان، ما توی یه تراحی مچاقل شب بعدم فکر کردم لازم نیست خود خودم پس بهش گردم ما یه تعیزه و تحلیل شغل رو هم داریم که بهش میگن چی؟ کافی یعنی چی؟ یعنی که این شغله رو حالا ما یا سادهش میخواییم کنیم، یا هر هرچیزی من شغل رو باید یه شرح وظایف براش در بیارم درسته؟ بله. یه شرح شغل در بیارید. و بعد یه شرح احراز شغل براش در بیارید. امم؟ چون یه تزدیه تحلیل شغل میانن از روش های مختلفی شغل شما رو نگاه میکنن میگه اولا یه استانداردی تو دنیا وجود داره که هر شغلی چه وظایفی داره یه از اون استاندارد استفاده میکنن یا مثلا میگم اگر تنست شما تو محیطتون این شغلا به صورت مستند تعریف نشده آقای کازمی میان میشینن کنار آقای مدیر مدیرامل میگه مدیرامل عزیز بگو چه انجام انجامه از خودتون سوال م یه مقدارم استاندارد داریم می‌میزیم که خصوصیه عام غیر از اینایی که شما بود این رو هم باید بکنه. بعد دیگه چی؟ گوی مشاهده با. ما میگیم که آقا ما با ما کاری نشن. ما یه هفته میام کنار شما می‌شینم تو اتاقتون بی‌سر و صدا. چون کار می‌کنه تلفن داره بحث می‌کنی جلسه ما همراه شما میاد. ها؟ حضور نامحری داریم ولی با شما همه جا هستیم. مشاهده می‌کنیم خودمو یاد داشوردن. از شما با شما مصاحبه نمی‌خوایم. یعنی از روش‌های مصاحبه. یه موقع یه پرسش‌نامه به شما میدیم. هم؟ میگیم که حالا از این چکلیستی که من بدادم بگو کدومی که این کارها انجام بدیم ها یه چکلیست بهتون بیدیم پس رمش های مختلفی برای جمعوری این اطلاعات وجود داره از روی اون شرح شغل و شرح وظایف رو در میاریم باید باعت... ببینیش همون چکلیست هسته؟ نه، باید ببینید برای هر سازمانی چی مهمه؟ مثلا یه سازمان کوچیکی باشه میشه از طریق همون استانداردهای که وجود داره در آورد یه سازمانی که حساس روی وظایف مصاحبه نه لزومند چون چکلیست ها میتونه افراد رو خیلی چیز بکنه دیگه چون چک لیست زیاده مثلا خیلی وقت دقتشون کم میاد ولی وقتی باهاشون صحبت می‌کنی مصاحبه هدفمند یه سوالات ساختاریافته ازشون می‌پرسی اون چیزایی که می‌خوای برای اون شغل درمیاری ولی به صورت یهو امروز تو جام... جلسه اول گفتیم ما من... اون قراره که یه سری سوالا در مورد کار مصاحبه و اینا برای کشیدن بپرسه نه مص این مصاحبه ای چیزهاش رو قل روخو در بیاره این مصاحبه استخدامی نیست اونو در خودش توفعت می‌کنه این م... اینو من میخوام شغل شو. شما الان به من گفتید من کار طراحی میکنم من میگم شیبانی بگو از صبح که میی چیکار میگه تلفن جواب میدم بعد به روز میکنم وبسایتم و آپدیتش میکنم اینا هی حرف میزنن یا نه من میام کنار تو میشینم یه هفته مینم تو یه هفته چطور چه کاری شهر شهرزادی فرخودم در و بعد احراز شغل چیه این برای اینه که وقتی من طرح شغل شما دیدم بگم آها اینا که مدیرامله بهتره که یکی از سطح های تحصیلاتیش دورای تخصص تحصیلات مدیریت دیده باشه، ها؟ پس بهدر یک تحصیلات آخریمی که مرتبط داشته باشه، این میشه یه شراط احساس. من یه مدیر عامل پویاری ها میگم که دیگه بالای مثلا سنش مثلا دیگه زر پنجاستانش، یه موقع نه شراط سنی مهم نیم، بگم هرچی اتفاقا دانشش و تجربهش میشه یه اونقا بگم نه جوونم هم باشه مهمی، بسته به این داری په چقدر توامن باشه، چقدر خوشفکر باشه، امکنان سن مطرح نباشه، پس اصولا رو سن روی تحصیلات و توامندی، از اون شرح وضایفه میگه آقا اگر شما میخوای بیار مدیر عامل من بشی، تحصیلات آکادمیکی مرتبط با مدیریت باید داشته باشی؟ سن که مهم نیست، حتماً باید یه زبان غیر از زبان مادر یک زبان دنیا رو روش مسلط باشی و همچنین بحث های مالی رو هم بدونید، یعنی توامندی تحلیل های مالی داشته باشید من برای مدیر آمل این رو در نظر میگیرم، با شغلی که برایش تعریف کرد یه میشه شرط احراز داشت، همون چیزهایی که خیلی وقتا توی آگهی های روزنامه، توی سایت های استخدامی، شما میبین با این توامندی ها. حالا توامندی های از دانش و تجربه و زن و توامندی و قابلیت های کاری هم باشه. به بخشی این تعلیف از شهر شغلی؟ آهان شهر شغل که ما صحبتشو میکنیم میگیم این شغله شغل در واقع مثلا تراحی ویب سایتی که یعنی کسی که کارشناس آیتی هست شرح شغلش میگه این هدفش اینه که تو واحد آی‌تی کار کنه آی‌تی رو چیکار کنه به اهداف خودش برسونه یکی از وظایف مهم این شغل طراحی وبسایت و رسیدگی و روز کردن وبسایت سازمانه این میشه شرح کلی شغلش و بعد میگیم وظایفش ما میخوام این تفاوت چیه احساس بکنی؟ اونف... نه شر... شرح, شرح شغل یعنی یه چیز کلی رو در مورد شغل داره توضیح ده و هدفی رو که شما اونجا دنبال میکنی هدف اصلی که داره دنبال میکنی مثلا که مدیر منابع انسانی هستی میگه شرح شغل مدیران منابع انسانی این که آدم های اکسپرت باشن آدم های کارشناس متخصص باشن تو حوزه منابع انسانی که بتونن وظایف مدیریتی و عملیاتی سازمان رو به نتیجه بلسونن. این میشه شرح شغلش ولی چه وضایفی؟ شرح وظایفش چه آهان باید بتونه برموزه نیرو انسانی بکنه باید بتونه استراتیجی های منابع انسانی بنیمسه باید بتونه مدیرته عمل کرد در واقع انجام بده و این کار دیگه خیلی البته باز هم همه اینا مختصه اون سازمان تعریف میشه. اگر از استفاده استفاده کنن کلی خواهن گفت. ولی دیل از اون برای اون سازمان خیلی وقت من دیدم اداره واحد من را به نسانی با هم. از درست نیست از نظر علمی. ولی با هم. سازمان شما این را ایجاب می کنید. وازار یعنی فروش هرچی دوتا باکس باشه. بهش آقایی داره. <تصفيق> ها. ولی خیلی سازمان با حاید بازار بفروشت شد. مختص اون سازمن مثلا آقایی که بیزینس جمع و جوری دارم. اصلا ایجاب نمیکنه کنه هزار تو باکس رو ساخت دارم خیلی ساخت داره وظیفه فلات هم نیست. یا بیتونه فقط فلات باشه. ولی اصولا وظیفهیه. من تا یه قسمت اداری مالی دارم یا قسمت مثلا بازار بفروشت هم خودم آن راستش. یه بیزینس کچولونیه هرچی که گسترش پیدا میکنه بعد در اوگه ساختارش هم چی کنه کنه با آش توصیح پیدا بخونیم ستا تا محبه هستی بگه داریم ستا میخوشتی پارو مخان استخدام شد اینایی که باید استخدام میکنن خیلی باید آره خیلی باید کتو میشین انتخاب کنیم؟ بسی که در کالا میمارم کتو میشین انتخاب کنیم؟ خب دو همه قسمتی که، در واقعا سه قسمتی که برمون مطرحه که البته همه این را در راستا این استراتژی ها برنامه برمومه ریزی نیروی انسانی هست جنر شما این وضعه که عملیاتی یه جور دیگه بهمید یعنی اینکه هم این هاست ولی مثلا گفتید استخدام بهوند و فرآیندهای نیروی انسانی جدی در خدمت خوب اینا تو دل, دل هر کدوم ها از این در واقع این کلیاتش این کلیاتشه ولی اون فعالیت های کلیدی رو ببینید به زبان های مختلف میگن مثلا میگن نگهداری کارکنان میگن که روابط کارکنان ولی جزئه باکسهایی که شما زیر مجموعه هاش رو بعد بدون اینهان میدونید استرات گیاز چیه؟ خاص و کلی بدونید طراحی شغل و تیزی تحلیل و کارش, کارش کافی شق چیه و بررمزینی رو انسانی چیه مدیریت جبران خدمت چیه؟ مدیریت عمله یا ارزی و بیارمکرد. این بحث تو کتابش پتابش ها نداشته باشه کتابای قدیمی مدیریت عملکرد یا اره بیاعمل کرد. بحث های جدیدیه که خیلی داغه و بهش اهمیت داده میشه خب. باعضم سین نیرو انسانی چی میگه آقای کاجار هر سازمانی سالانه یا به صورت موقت حسابی میگه که قانونی آقای وردیی های برای سال آتی اگه ما گسترش داریم ما تنوعی شیینی داریم آیا تولیدمون میخواهیم افزایش بده آیا آمیست با کارگر جدید داریم یا نه در سال 94 داریم آها آه پس یه تعدادی رو بعد چیکار کنیم جذب کنیم حالا بعضی موقع میگیم که نه شیریری پس داریم آقای روی آدم حرفوه یا فزیه میگه ببین من میتونم که خیلی کاری که برای 90ش آدم طر از این آدم داخلی هم استفاده من. پس بنابراین ما خیلی وقتداد توی بروزی نیررو انسانیمون میان نگاه کنیم و برآورد می با توجه به اهداف سازمانی و استراتژی هایی که برای سال آتی داریم حالا می که برای امسال بر تیل نیرو کنیم باید نیررو اضافه کنیم، چی کار بکنیم؟ یا باید یه سری نیروه همونه توامد اگر بکنیم مسایل من همیشه کم بوده نیروه تصمیم گیری ما این اهداف و استراتیجی هایی که برای سال آتی تعریف کردیم چیه؟ اون بازی میشه که ما برای نیروه انسانیم و کنیم؟ برنامه رزی کنیم حالا این برنامه رزی یک مفاهم داره شما باید فقط به با اسطلاح علمیش آشنا باشید وقتی میگیم ت چقدر تقاضا این سازمان برش وجود داره نیرون میخواد، چقدر عرضه هست، چقدر امکانی میگه شما برید از بازار، از بیرون آدم بدید، از شرکت های رقید و بعد دونه میگه که امکان پذیری برنامه، آیا اگر شما تو بانتی، اگر تو وزارت خونه اصلا اجازه فراخان داری؟ نیرو جرس کنی، اگر تو بانکی هر سال چقدر حد می‌تونی نیرو کنی؟ چند سال یک بار می‌تونی فراخان بدی؟ بعض سازمان‌ها در واقع چیه زبابت قانونی روشون چیه تأثیر بزاره؟ خیلی وقتها آقای نبیل می‌گیم نه قربونه لازم نیست بس سال دیگه با این برنامه که به خودم می‌تونم اصلا نیرو جرس تکنولوژی دستگاه ها ما می‌کنم ویروز می‌کنم؟ نیروانو کنی کنم. یعنی می خواهم یکی بحثای تکنیلوژی هایی از بحثایی که بسیار تحصیل بوداره. و اینکه ما تو سازمانمون گاهی اهداف سازمانمون رو یه تجریح نظر بودم. اون بچه ها زمانی هستش که در واقع برنامه های استراتژیک سازمانمون داره تغییزون کنه. مثلا ارز یه قیمت متفاوتی بگیرده. من در کنار کار اه اه فروش نرم های کامپیوتری داشتم یه کالایی رو وارد میکردم درسته؟ هیچ ربطی هم به این ندارد تو وضعه ترشیزات پزشگی از این شرکت ها خیلی زیاد شده درسته؟ درسته؟ عقص که در بالاخوار میگه فعلا این قسمت کارماش کارم کنم متوقف میکنم پس بنابرای تعدیل نیرو باید بکنم چون برای این کاره یکی دو نفر به من کمک میگردم یعنی برنامه های برنامه های استراتیجیک شما که این اهداف سازمانیت تو چه کارم کنه اثر میذاره یعنی شما مجبور میشین که برای هم نمیگن که سازمان باید منعقف باشه، ساختارش برای اینکه اگر یه همچین برنامه هایی تغییرات، سیاست های دولت، مباحث پولی یا حتی یوهو شما فکر میکنی که آقا منم کارنودیشم اصلاً چرا من کار کنم این مغازه‌ای رو که دارم و آخه بوتیک بکنم نماینده بنتون رو بگیرم بهتره جاش واسه این کار بهتره تو قنادی هاست خیلی ریسکه ولی این داستان نه مثال زدم یهو امکان داره یه بیزینس خودمون تاپ خیلی آواسان دیگه این ریسکو می‌پذیر ببینی طرف مثلا رستوران داشته شما درست میگی میره رستوران چه مشی یه دیگه وجود داره آه. مثلا من رفتم دیدم مثلا مغازه است دیگه چون ببینید حالا مغازه فقط سرقفلی داره دیگه یا اجاره است اینجا مثلا الان تعطیلات های تعطیلات بود ورزشی و من می‌مونم نووی چم شد یه بیزینسی حالا اون بیزینس مال شخصی آدم کُلش داره تقویمه ولی لوازم ولی خودشون تصمیم میگیرن مثلا من یا تصمیم می‌گیرم نماینده دیگه تعطیلات رو رها کنم پس بدم برم یه نمایندگی دیگه از یه مثلا ادیداس یه بیزینس رو دیگه بزنره حالا یا ما شابه یا خیلی هم متفاوت دیگه بسته به شماره اونجا ها دیگه خیلی بر مایه استراتژیک شما فرکن و اینجا نه تحت شوعا مثلا مباحث قرارداک آره ارزییه یا یه سری چیزایی یا اینکه نه اصلا شما میگه آقاجان کارسا منیه خیلی فروش خوبیتون حوزه نکردم یا اصلا دیدم خیلی مشکل داره بر فروشش به دکتررا معادم حرفهتون کار بده اصلا اینو غیر فعالش میکنه یا نیره شد دریه جای دیگه ازش استفاده میکنی، یه چه کار میکنی، اصلا تعدیل نیرو میکنی پس بنابراین برنامه, برنامه های در واقع برزنی نیرو انسانی چیکار کار میکنه تحصیل میکنه یه سوال کلی، ام... کسایی که خودشون مدیرن تا... مدیر چی؟ میانی خوان... یا خب به نظر شما چند تا مشاور بد داشته باشن که بتونن کارشون رو درست هندل کنن؟ اصلا مسئله چند تا نداره، به به نیاز تا حالا خودشه دیدی داره اون مدیر بعد مشاورم ببنید. یه دیدی بهش میده بعد ممکنه این واسه سردارمون بشه پلیس سوال که... کردی منم کلی جواب تو میگم ببینید اگر که یه طرح کسب و کاری رو جدید شما دارید می‌ذارید من خواهم از بیس برم, برم بر بازار و اینا آقای خازمی شروع کنم می‌خوام برم یه مقداری ایجاد کنم آقای ابراهیمی از بیس من به شما توصی می‌کنم از اون بیس اول مشاوره یعنی چی؟ برو یه بیزینس مودل برایت در بیاره چرا؟ چون اول بفهمی چی باید چه بکنی یه ساختار به ذهنت بده سرمایت رو ببری کجا؟ دقیقا جاس رو بده ارزیو بکنه و و و هزار چیز دیگه ها؟ چند تا نیرو بگیری الان چند تا بعد حتی توی این مسیر هم میشه مشاوره های مختلف باشه ها ولی مقطع اولی است. شما شروع می کنی به حرکت میری میری جلو این مشاوره هر ازگاهی به تو دیگه انظاعتی میکن کنید. یه تو دیگه میرسسی میگه میخوام نرووج از مشاه انسانی مو میگی نه من خودم اصلاتحصیا منو به انسانیه آدم حرف هستم مطالعه روزم دارم دوره بیام دیدم خودم میتونم استخدام می کنم در حد نیازم استخدام میکن. ولی من میخوام بگم عد آگاهی داشته باشید که انشارم دارید. کمتر نیاز به مشاورد داریم ولی بهتره قبل از اینکه به آرز برسیم دنبال مشاورد داریم چون خیلی وقت ما میذاریم به مشکل بخورد میکنیم آقای کازمی مثال اینه که من هیچ خودم از بازارلاوی فروش نمیفهمم آدمیم که جذب کردم معماری خونده بوده جذبش کردم داره دیگه ولی شما ها نداریم اصلا کی سر جای خودش را؟ آقای سلطن روش خب. این خواه دیدم خیلی خندید آقایی پاکه این که چیز بفوق من دیدم میگی من آدم هایی کندم طرف ملیماله خوند چیز خونده مددکاری اجتماعی خونده موگی من کار تبلیغات میکنم بعد یک خواه برناه آیتیش موگی من یه مدر موفق تبلیغات کنم چند سال سابقه کار دو سال چقدر حقوق مخواهی سه میلیون و بهشن داده همه چون من کار استخدام زیاد میخوام، اینقدر این مواحس رو باش درگیر هستم و علامت های سآل، شاخ، هرچی که درخون کار من مهمم میکشم، این وقت شاخه من, من پاره نمانه واقعا اصلا برای من جای تعجب داره خب ببینید، این آدم ها یا روابطی میرن سرگار، که ببینید، من بلد نیزم من میوان قیافه سجاب باشم اصلا مهم نیه چی تحصیلاتش چیه چه توامندی ها حالا خدا روشو توامند ولی از خودش خوشم داره اصلا این آقای شیبانی یه پسر مهرمان چششم خماره به دلم نیشونه بسید <تصفح> ندیدیم؟ <تصفح> اصلا هم به مدار دونیم یه حسن خوبی داتی شیبانی من چه حسن خوبی داتی؟ چچون این عرضی روش کردی؟ تا حسین چه داری؟ این باباش با من دوستی، باباش دکتر و فیده هم نکبته سرم منم برش بودم, بودم بودمش تو شرکت خودم حالا این برش خصوصی دولتی که اصمی نیست که اسم این کاملا قابل نگی. آره دیگه متأسفانه دو تاش دوشر مشکل. حالا میخوام اینو بهتون بگم شما بعد این آدمه موزل میشه، کار نمیکنه، اونجا بلوا به پا میکنه، مسائل رفتاری و اخلاقی داره، به همین بیا به دادم. من چه بکنم؟ خودت اومدی اینو استفاده کردی، امیدوارش کردی، این رفتار ازدواج کرده، نامزد کرده، روی روند درامن هست. حالا اومدی قبل از اینکه اینو استفاده می‌کردی برای من وقت بگم، یاد بگیرید یا کنارت بشینم ارزیابی بکنم به خاطر ها؟ پس بنابر من میگم قبل از دیگه بهترین حالت اینه که پسر خوب قبل از اینکه به موزل یا در واقعه آرزه به مشکل برسیم از مشابه استفاده بکنید و حل خودتون رو توامن کنیم اگر شما مدیر آمدید و همه بعضی مدیر آمدید ها اینجوری از آقای سلطانیم کار رو واگذار نمی کنه مسئولیت رو به مدیر مرنو بذاره مثلا آقای کاظری بگه ببینی شعبانی من مدیر مرنو بذاره خوبی رو. ولی همه استخدامی رو باید نمیدم خیلی بیام خوبی هم هست بیزنستش کچ خب اگر میخوای ببینید آقای کاثمه باید یک همی حرفهی بشید باید بدونید مساحبه یعنی چی؟ چه سآلاتی تو مساحبه باید بپرسید؟ باید توامندی روان شنیستی تو زیاد کنید باید بتونی که از سآلات ساختالیافته استفاده کنید و بتونی که از شرح شغله، از شرح وزیفه بدونی که این شغله که میخوایی شیبانی و استفاده چی کامپیدنسیایی نیاز داره. هم. پس اینا رو من اداره اداری دیجیتال گفت. یا اینکه مدیر منابع انسانی تو بگو اینا رو در بیا من آموزش بده یا یا وصلت دعوت بکن ما مثلا تمام مدیران میانی چیکار کنن آموزش رو ببینن و یه مدتی با مشاوره برن وقتی راه افتادن دیگه بسم الله خودشون میرن جلو چون مثلا شما یه مدیر منابع انسانی توی تو شرکتتون و می‌خوای اطلاعات سن به دست بیاری به خود اون مدیر بگی بس چی بدی؟ اطلاعاتی چی به دست میاد؟ اون آموزش بده که آقا بعدا استتون بعد چه سوالایی؟ نه، مدیر منابع انسانی به کی آموزش بده؟ به مدیر عامل. آها، به مدیر عامل. خب باید خودش تماماً باشه. دیگه آره خودش هم بلده آموزش میکنه، خودش رو بتونه درس بده. نه، آخه مسئله اینجاست که کمی دوستان وقتی که ما میخوایم یه کسی رو جذب بکنیم، توی مخصوصاً جذب آدم‌ها، شما فقط دانش به دردتون نمیخوره. تجربه هم نیاز. نیاز. درسته آقای کازمی؟ آقای کازمی هفت بزن خصیصبازی در نیاما هفته پیش هم شبه داشتیم هم دیروز تولد حضرت مسیح بود دو تا عید شما هم خصیص اصلا هدیه نمیدیم آقای مخصوصا آقای کازمی مخصوصا <تصفح> آقای کازمی آقای کازمی یه میشه یا اسمونی داره یا میشه کاشیب داره اصلا <تصفح> هم خورس و ذکات هاش تجاره و <تصفح> دارششو چون گفتم از اول دورم هم بتونه چون ما با این سر کاردانیم خیلی پیچیده است تازه اون آدم خوب رهه. اون با تجربه باز با خطایم کنه آدم جزده ها صد از این مثلا این مدیر آمد بده موسیم مدیر زیر دستش بهی که من آنوزش بده برای خودش بد نمیشه نقل شده نمیشه نمیشه لازم نمیشون بگه میتونه این کار کنه اگه آقای سلطان به من. نه وقتی از بین این چند نفر یه نفر اینکه فقط بکنم بیان ببینم ما این باشه صحبتی داشته باشم مخوام چهره شو شده. یه نیروه دیگه پرده تو راه رو دیدم نگم مثلا قنبر کیه؟ این حسن کیه؟ ها ما مثلا بخوامم که ولی یه نکته داره امکان دارم مدیر آمر بگه آقای سلطه را، شما به عنوان مدیر من را به امسانی، چون جذب برای من خیلی مهمه و تمام مدیران من باید این دانش و خود من کس کنم آه. یه استاد خوبی را دوت کن، چیکار کن؟ یه دوره یه کارگاه، یه دوره توتاه مدت برای ما بیاد این را چیکار کنه؟ آموزش بده، همه مدیران من باشن، چون گفتم بچه ها از توریه سال نبودید، امیر حسین و سجاد اعظم، از سال 2005 مدرح کردن اگه آقا دیگه مدیر منابع انسانی بازوی راست مدیر عامل هست، باید تو بحث که همه کلام کمک کنه، همه مدیران نمیانی، باید منابع انسانی چی باشه؟ چرا؟ چون تمامشون با نیروهای زیده از کار دارد، تمامشون با تحلیل کنن آدم رو، تمامشون تو اون جزده، تو مدیر مستقمن دخیل هستن پس باید همه، باید نیروش ارزیابی بکنه باید نیروش رو بهش انگیزه بده محیط آیتی رو جوری کنه که خلاقیت ها، ایده های در واقع شیبانی بروز بکنه درسته؟ و بعد این فردش های سر رو به سازمانش حفظ کنه همه کارا رو مدیر بازاریویو بخفرش بلد بشه تولیل باید بلط بشه، مدیر ملامه اقسانی باید بلط بشه، مدیر آرندی باید بلط بشه و این مدیر دیگه، تمام مدیران میانی، و چی باشن؟ در واقع، بله، به بحث های ملامه اقسانی مسلط بشن بس ملامه حتما نیاز به آموزش بتونم داشته بشن اجازه هست بریم، تم شد خاستا می‌نوگی آقا استاد چخش بفهمم باش باشه چه سراغ اینو اینکه میگه که مدیر عامل چجوری این آموزش رو از زیر دست خودش بگیره ها قرار نیستش آقا سلطانی درس بده که یه مدرس نیست شعبانی میاد درس نه نه می‌تونه یه مدرس دکتر ابوالعلایی بیاد درس یه مدرس میرسپاسی دکتر جزنی ها مثلا اینجوری می‌خوام اینو بگم میگم که می‌تونه دیگه وقتی جذبش کردی شما نقش اینو رو جذب کردی؟ چی دیدی؟ چه شاخصی توش دیدی که اینو رو جذب کردی؟ ما گفتیم یه همچه آدمی میخواهم شما مده تمام توامن درسیم رفته این جذب کردیم ما بیم جذب شما ایمان داریم نه این برفرض اینه که کار به شما تفیز کرده تفیز کرده کنش نخواهد اصلا کار رو میگه که چه کار چجوری یاد بگیریم چجوری این روش مدیر مدیر؟ بس اگر, بلد. بلد. بلد. اگر, اگر شما یک دا... سازمان هرفهی باشی که حتما مدیرت, یا مدیرت دانش داده که اینا مستنده ازش اونجا موجود داره و این داخلیه شما این مشکلی بیرو یا نیرو که در جز میشه اینو بله نیستی مستنده من باید اصلا از این فرایانت ها برم نیرو جز بکنم ولی این چیزی نیستش که یه شلقه کازمی از شما یاد بگیره شما ایش رو باید بدونه که اصلا چجوری این چون آدم ها رو نواش کنه اگر که مثال میزنم من نگرش منفی دارم کلا آدم مرفیم دیدین این روز هوا سرد با این مندکت خراب با این هوای آلوده بچی چی؟ آدمایی که اصلا حرف نمیزنه این قیافهاش هر چی میبینم مرفی چون یه نیروی اینجوری داری؟ که باید ببینه آیا من منفی هم چجوری از زیر زبون من بکشی؟ با چه آزمونهای شخصیتی بفترون من چه تیبادم؟ چون آدم میاد همه اندیز مدیر رو همکار رو، حتی آبدالچیه رو میگیره ها؟ ولی حالا من، اصبح چه هوایی دیرانیزی، زیبه زیبایی، صبح هوا مثل رامسر بود چی اشکق داشتم صبح که اومدم رخ ماه آقای شیبانی رو رودم اومدم ماشین مبارک با کل ماشین مبارکشون پارک کردم بعدم آقای کازمی ازدم و با یه لبخند بسیار جذاب جذابدم. آقای چیزی دوش... ابراهیم براهیمی مطالعاتش رو اومده مستند کرد رو تابلو به ما گفته بود که ببین من چقدر تاثیر گرفتم که من همش بودم خدا شه خ ش ها اینم یه نگاهه شما چه ج باید اینره در من بفهمی و از سوالت کرد میپرسید. منم خدای من آدم خلاقی ام چه پرسشی بدار بکنید با همه‌تون هر هم به من بدید می‌خوام ببینید که من آدم خلاق و نوآوری هستم یا چه بهترین پرسش چی بگید تو چه زمینه‌ای واسه هر اصلا کار من چیزیه چی از من می‌پرسی که چی دوست داری اصلا بله بله آقای سجاد من بسیار آدم خلاقی هستم من, من هر روز دلم خاطر چیزی خلق اول چیزی که منم چه کارهایی داشته؟ خب چه سالی بپرستی؟ این رزومه چیه؟ چی تو به خبر دادن؟ آگه این خیلی چیزه. مستقلی. اینا غیر مستقیمی هستن. مثلا من خودم همیشه میپرسم که واصه این فری تا حالا کاری کردی؟ آها. ما ساخت ساز میزنی؟ سازو من خودم خیلی استفاده می کنم. خب من اصلا هنر ندارم، نه هنر آشپزی میدونم، نه هنر موسیقی او و آواز، نه نقاشی، من بسیار <تصفح> بی‌هنرم. این که دلیل نیست. سجاده یه حرف قشنگ دیگه‌ای همزه. ببینید شما میتونی بر حسب اینکه مثلا میخوام بگم طراحی وبسایت میکنه، میخوام ببینم چقدر خلاقه. ببین شما تو کارهای قبلیتون چه وبسایتی بب رو طراحی کردی؟ میشه همین الان تو اینترنت بریم ببینیمشون. میگه مثلا ما میگنیم یک کیس میدیم میگیم, میگیم همین الان یه دونه وبسایت وقت داری امروز از قبلش میگیم این وبسایت در ساده تنشیک برمطالع کن همه میخوان چیه یعنی چی کار داریم میکنیم تو شرایطت حالا نه میگیم که آقای السلطانیاں شما تو گزای منو به انسانی سالها کار کردی و تجربه ده شما چقدر تغییرات ببینید قلموس چی تغییراتی تو فرایندهای شرکت آبا فاظلا توی آنسان رو ایجاد کرد میشه چند دینش رو بره باه میکنی من ازش میخواهی که از خواه های گذشته بکنه؟ مثال نید ولی میتونه چی کار کنه برشا؟ آقای من درست فیلم بازی کنی بگه حالا خجا بفهمم که داری فیلم بازی کن و بیتونه خوشه از شما خوشه از شما همون حرفی که این سرچه شما چه حرف بس هم میشون هم میشونمو ساید کنم بسیار ازم هم روزیم تمام مدیره که قرارم بی مسئله بودم بعد میبین درج جا رو هواسیده اینجا چه رو رفتی؟ اونجا چه رو جا حتما تحقیقات 360 درجه، سر 180 درجه خواهیم داشت ولی شما باید برای هر کدوم از اون کام، مثلا کامپیتنسی مشخص شما خلاقیت باید براش سوال مشخص داشته باشیم کیس داشته باشیم، آزمون داریم ما، ما آزمون داریم، م? ما یه سر آزمون داریم برای اون چیزا، اون آزمون ها رو بیاریم، مثلا من تصور رو که برای تحقیقات استخدام میکنم، آزمون خلاقیت بهشون میدم اونا اصلا با سوالای خاصی ازش نمیپرسم غیر مستقیم و گاهی هم حتی مستقیم همون IQ دیگه؟ جا؟ تست IQ دیگه؟ نه اون چیز هیجانیه اه... او به... اون, اون یه آزمون داریم که خیلی مختلفه مثلا مبانی خلاقیت مثلا من وقتی تئوری‌های سازمان مدیریت درس میدم چون یکی از ویژگی ها و توامندی های مدیران ما خلاقیت و نعاوری این آزمون را برایشون چیز میکنن بهشون نیدن ببینم که چی جلوه خلاقیت شده چون؟, چون نه نمیدن من سازمان مدیران بهتون درس هم دارم دیگه دارم میگم آزمون چی انجام میدهیم؟ آزمون خلاقیت Just, آه, و این ها تست دیم انواع اقسام هم داره ها ولی آزمون فقط میگانه این دبه چک میکنه صحبت های شما رو برداشت های شما اجازه میدیم برم؟ خب فراید برنامه ریزه هم تو که داشتیم با هم صحبت میکردیم گفتیم اینا همه نشعت میگیره از بر... برنامه های استراتیجیک کلان سازمان که بحث تجاریش از همه مهمتره و بعد میان میگیم که خیلی خب نیرو میخوان وضعیت مجودی ما رو بررسی می کنیم ببینیم که نیرو زیاد داریم کم داریم اگر زیاد داریم باید تعدیل نمیرو کنیم اگه کم داریم باید استخدام کنیم اونایی رو که میخوایم تعدیل بکنیم که از روش تعدیل تدییل استفاده میکن باید یه شرایطی رو بزنیم که افراد خودشون خودشو داوطلبش از سازمان بن یه عد یکدم که نرفتم اگر ارزبه عمل کرد داشتیم یا اینکه قرارداداشو به پایان نزدیکه اونا رو چکار میکنیم دیگه تمدید قرارداد نکنیم ولی یه موقعی هستش که ما نیرویمون رو میخواییم جذب بکنیم یه نگاه میکنیم میگیم خیلی من در چه حوضه ای نیرو بخواهم آیا میتونم کار آقای شیبانی رو چی بدم؟ توصیه میکنم ارتفاع بکنم توصیه بدم یا قنیسازی بکنم میتونم یه کارایی بکنم که از شیبانی تو دو تا جهت استفاده کنم مسئولیتشو بیشتر بکنم ها مثلا میگیم من به عنوان یادم خیلی وقت دینی نیروشم که به من چ چه نفر هم کار میکنم بر از اگه واقعایی ها یعنی اینکه وظایف خیلی عدیده ای دارم خیلی وقت شما دیدی مدیر رامن ببین ما چیه بیزنس کوچیکی هستیم خودیم کار مالی بود میکنیم کار حساب دارم. خود جذ بمون انجام دغه اونجا در همه بعد که جدا میشه حالا، اون موقع شما اول به داخل مجموعه نگاه می کنید اگر نیروی باشه داخل مجموعه بتونیم جابجا ب جا کنیم جابجا جا شغلی انجام بدیم انجام بدیم اگر بتونیم توسعه بدیم اگر برنی سازی میکن انجام بدیم. بعد بگیریم ساتت بیرون ها. بیرون ها چیکار می کنیم؟ می بررسی می این بررسی ها بیا از داخل یا از خارجه درسته داخلی ها رو ببینین حالا؟ برای این بخوام آقای شیبانی کارش رو توستهی بدم قنیم کنم یا گردش شوقی باید بگم که آقا جا من برای اون شوق چی توامندی و مهارت هایی میخوام این فرد چی توامندی و مهارت هایی رو دارم حالا میتونم از افراد رو منتقل کنم ارتقا بدم ترفی بدم چی جوری از این رو در واقع استفاده بکنم این میشه من باید داخلی از بیرون چی کار میکنم بله می مستادین مستلزم اینه که همون لحظه که ما میخوایم این کار را انجام بدیم، از افرادی که تو سازمان داریم یه رزومه آپدیت شده بگیریم دیگه حتماً باید اطلاعات کاملی از مدیریت استعداد همینا می‌گیه دیگه یه اطلاعات کاملی من در رابطه با همه کارکنانم داشته باشم اصولا افراد یه پرونده‌ای دارن پرونده پرسنلی دارن حالا اگه سازمان شما ارزیابی عملکردم داشته باشه فرمای ارزیابی عملکردشون هم هست دیگه هم خیلی به ما کمک وا ولی بله باید حتماً یه اطلاعات داشته باشم اصولا هم چون یه کمی از این دانششون وصف به حقوقشونه، اگر شما تحصیلات عالی بکنی، مدرکشو بردی، دوره تخصصی دیدی، مدرکشو بردی، سالهای تجربت که اونجا مستند دیگه الان هم که الحمدلله خودت آیتی، همه میکانیزه هست، ها میتونی بگی که آقا جا من توی مثلا حوزه طراحی صنعتی نیرو میخوام ببینید توی بچه های سازمان که تو حوزهتوانمنده یا اصلا تحصیلات مرتبطه چ میکان م ت از صعتی خون ولی روزمن این کاره رو انجام نداده باشم. این چکار بر مدیر منو به انسانی میخوان یا ابلاغ بللاغم به تمام مدیران تمام واحد ها. اونا اونار یه بررسی میکنن چی کار منتقلش کن ولی اگر هم پرونده های به روز و مشخصی داشته باشه یا حتی خیلی وقتا تو سازمان ها تو سایت داخلشون توی اونناچی میگییم بگو پرتال داخلشون چهکار میکنیم؟ که چی میذارم نه اصلا اطلاعی میذارم میگم ما یه دو تا باکس خالی داریم چیا درخواست هستن برای این باکس ها من رو خودم درخواست میکنم وقتی خودم درخواست میکنم یا نگاه میکنم میگن شعبون تحصیلاتش چیه توامندیاش چیه چرا خودش انگیزه داره بعدش امکانه دو, دو تا دورم بفرستیمش اصلا بتونه کار رو انجام بده از خود چیکار میکنن از خود کارکنا میخوان که درخواست بشن تو خارجی نگاه کنید دوستان اصولا ما گاهی آگاهی میدیم این آگهی رو میتونیم تو روزنامه بدیم، میتونیم تو وبسایتمون بذاریم، حتی میتونه همیشگی باشه. چه دوست دارم با سازمان آقای کاظم همراهی بکنن، همکاری بکنن. من رزومه ها رو برای شما ثبت می‌کنم. شما روزی که نیاز دارید میین رو این رزومه‌ایام که از بیرون اومده رو بررسی می‌کنی. هزینه آگهی دیگه نمیدی. از سایت ایران ایران آره اینا استفاده می‌کنیم از سایت‌های کاریابی از دفتر کاریابی خیلی وقتا میان تو اصر شبکه اجازه می‌گیریم مدیریت می‌گید که آقای کازمی می‌گید من یه کارشناس فروش می‌خوام یه آگهی یه دونه برگه آ چهار تربیش شده می‌ذاره برد پس بین بچهایی که اینجا میان چکار میکنه میان با اون تماس یا اون آدرس ایمیل که شما دادی براتون رزومه رو میفرسته خیلی وقتها مدارس دانشگاه ها مؤسسات که شما توشون در اجازه دارید که این کار انجام بده بیشتر دانشگاه ها یا مؤسسات آموزشی میتونید که اونجا رو بزنید یا اینکه من خودم اومدم تو ویب سایت شما یا اصلا اومدم مراجعه کردم من یادم میاد 18 سالم بود رقم پتروشومی یه دوستش هم گفتش پتروشومی نیروکن مکن تو انگیزش کار. حال اینجا فرم بگم من یک سال خ می کردم. اونجا به من زنگ زد که بیا هفت خانه رستم رد بار مناد خیلی خوبه آدم به اون موقعی که خواستم من دیگه 19 سالم بود هفت دفعه منو گزینش کردم توی دهه شص هفت بار جدی میگم و همین جو هم رفته بودم رو رفتته بودن حال حال ا نه همین همین شک بودن میتر ب همشه شب جی هم, هم, هم پووش بودم اون کفش سف سر می تیک به سر میزن بگو چدری اومده بودن اونجری اون محده بودن و چون بچه های تصدقیافت می کردندن که این شرای هم کمک بود عرضته بعضی مذهبی بودن بعضی یا خودشون رو شک کرد نماز رو بابمون جززی نمیید. بگ نمی رییس کیگوی می بسن آقای رزش. موافونش اکمیه میدونم اخباب نگوانه نمیخوایی چرا شو اصلا سیاست دوست زده نماز بود بله غلطی بله اصلا میگم بگم یعنی میخواهم بگم تمام این چیزها جالبه من واقعا تو اون مسایبه ها خود واقعیم بودم چون یه سلینی هم داشتم که به یاد دودو بودن ستاقت و راستی گفتم که بهتون چه رفتارهای گافایی هم بعضی خود دادم اونجوری بودم جالبه براتون تو اتفاقا من را چیز کردم در واقع بله قبول کردم بین اون همه آدمی که اتفاقا اونجور بودم و من تجربه خیلی زیادی هم نداشتم ولی بلد بهم این چیزایی به صورت حرفه ای تو کار کارمندی بلد دارم چون پده هم خصوصی داشت یعنیم همین چون شیطونتی می رفتیم کنر منشیش کار یاد می گرفتیم کنر همکار هاشون تو مالی می شستیم و بعد هم دوره تحسسی رفته بودن تو همون یک سالی که کار می چند تا دوره حرفه ای رفته بودن دیده بودم بعد که به من گفتم بیا فضاش خیلی فضای آقای کاظیم خاصی بود آقای ابراهیمی. توی یه فضای رئیس مروسی خیلی شدید یعنی مثلا به من گفتش که اون آخرین جایی که منان چیز کردم مدیر مستقیمه بود یا آدم مذهبی همشه همه زمینه هم با کنم من این نامه رو به شما بدم بعد کاراش بکنی بکنیم بعدشم بهت بگم کجا باید ارجابه شو اینا خب میخونیشتی دیگه گفتم بله گفت خب نظر نظرم گفتم بله حتما اگر الله حضر عدد یک اشکال داشته بشه میگم هرچی من بگم؟ بهش کاملا رئیس و معروسی بود کاملا رئیس و معروسی واقعا بهتون اگر بخوام بگم سه برابر حقوقی که میگرفتم اونجا بایم حقوق میداد و خب پتروشینی خود مرکز توی هفته تیر نرفتم به دلائل مختلفی حالا بگذاریم ولی میخوام بگم هفت بار اون منو گزینش کرد تخصصی کرده تخصیصی، مذهبی، اخلاقی اونا خیلی پروسه های آنچانکه که یادم. بیاد قبل از یکی ای رئیس آخری من ببینه یه میزه مثل نهارخوری های بزرگ داشتن دوازده تا آدم نشسته بعد من, من نشنا اینجا نه هرشی تو بودم دفاعی که بینم چند نفرن یعنی شیشته این ورن شیشته اون ورن بلسه تا آدم نشسته بودم من هر جزوی بینیکرم حتما من از لازه رفتار، تیپ حرف زدن و البته بچو خیلی اعتماد به نفسم زیاد بود کلم نشدم و اصلا اون دروازه رو بره نترسوندم ولی این دلیلش همونه بود تمو تمرینایی که شما گفتم تو فن بیان و اینا من توی دوران مدرسین رو میکردم برای همین بلد بودم اونا منو نمی... نمیترسونن شو تااطازی میکردم میدونین برای همین هیچ وقت جمعیت منو نمیترسوند میتونستم حرف بزنم هول نمیشدم اینا همه باعث شده بود که در دوران نوجوانی هم یه سری رو به ده سو ورده بودم. اونجا آره اونجا خیلی اذیت نشدم. ولی بخوام بگم کاملا حرفه‌ای اونجا ما رو گزینش نمی‌کردن. خب تازه یه سری اون درای 70 سو می‌فرسه ما تحقیق. بله. بله. حالا امراه. فکر نمی‌کردم میرم برای تقافسه ما نفهمیدم. ولی حالا اون بود. جالب بود حالا ولی چیز دیگه‌ای ولی گزیناش نیومدان. حساب ما رو تأخیر می‌کرد. آره دقیقا. ولی هر کی دیگه شد میرفت اونجا. آقا کازمی من حالا نمی‌دونم این مدیرم منو اخبا کرد دیگه. من انقدر بلوف کون کرد و یه جدگیش گفت چی چی چی نمی‌دونم اینجا بهتره. من موندم. والله. الان متوجه میشم اینا که برای خیلی حمینی بوده که در اونجا بمونن. خیلی وقتو هم سازمان اعتماد داره. ولی دوستان من اینو بهتون خیلی توصیه نمی‌کنم. در حال حاضر، ببینید در سال 1393 این توصیح رو بهتون نمی که شما آقای ربیب بگی که به کارگرت بگی اگه ای آدم هم محتمیدون بیار و من پسرخوالم رو میارم یا دوستم رو میارم من بهتون توصیه رو نمی کنم. چون این روابط ها اون روابط غیررسمی رو شدیدتر میکنه آقای سلطانی که در مورد ارتباطات غیر رسمی با هم صحبت کردیم پس دانوارین خیلی وقتی میگه کار... یا بیا از کارکنان دیگه کمک میگیریم که اونها نیروهاشون رو در واقع به ما کمک کنن و رو که میشی آسن معرفه کنیم کارمندوی از این اتحادی ها ای اتحادی ها دوستان چون بیس بیس اونور اون ور آبیه ولی انجامن ها اتحادی های کارگری اینا چوب قدرین قدرت من هم بحث های سازمانی تو کشور ها خیلی وقتا از اونا هم کمک میگیرن توی ایران اصولا نه اتحادی ها ولی از انجامن ها گاهی میخواه که مثلا مثلا آقا مدس خلیلی اگه کسی میخواهی تو این صنعت به ما معرفه کن اما از این کار هم انجامشه اصلا کاشانس های مدیریت که به خوابی میکشبه کاشانس مدیریت که خود انجمن به توصیر میکنه. بعد از انجامن ها حالا میاد اینجا چا نوشته اتحادی بحث بحث اونور آبی هم هست اتحادیه کارگریه توی اونور آب خیلی قوی هست توی ایران اونقدر قوی نیستن میدونی خب، بحث انتخاب این مرحل که عاشقش دردشو ایبادی اینه که حالا من یا آدمی رو به هر دلیل شناختم چیجوری این پروسیر اتخاب اتفاق می این این گذنشی چیجوری اتفاق می رفته؟ آقا شما آدمی رو که میارید از از همه احتمالا یه فرمی رو باید پر بکنه این فرم رو که پر کرد، مشخصاتش رو دارد فرم استخدامی که پر کرد یه مصاحبه اولیه امکان کی بکنه؟ اون کار شناس انسانیه باشی صحبتی که صحقتی کار تحصیل از شو ببینه رو بگیره آن، مدرک اولیه یا فقط ببینه اتش، ظاهرش رو ببینه، سواقش رو ببینه، یا مدر منو برسه بعد از اینکه اون فورمر پر کرد و مسایبه اولیه اتفاق افتاد، امکان داره امکان داره، این حالا مدل پیش ازد سازمان شما یه سر آزممون ها مصیبه های حرفه ای با این فردا انجام داره و بعد از اینکه انتخاب شد بریم بگیم که خیلی خوب حالا برو سوات رو بیار بعد معاینات پزشکی و سوئه پیشینه نداشته باشه و از این مداری هایی که برای برخی از سازمان هم مهمه میاره یا مثلا امروزه خیلی صفه میگیرن اینکه یه فرد به تو سازمان چون کار کنه بر در بعد از شکایت کنه اون را درگیر قذرت کارو می نکنه خیلی وقت صففته میرممثل که بار سخته بیا زامنات رو بیاره. ام در واقع مباحث جنبی و بعض طرف رو در واقع اوکی میکنن این طرف رو حالا میخونیم توی قسمت آموزش نیاز داره که نسبت به سازمان خودمون و اون شکلی رو که میخواد بهش بدیم اون پست رو که میخواد بهش بدیم شامل الکترونیکی بعد توش قرار کن توجیهش میکنیم ببین سازمان ما داره این ارزش هاست این فرهنگ سازمان هم منشوره که با هم صحبت کردیم در موردش مثلا منشوره اخلاق کاری منشور، مثلا ارزش های سازمانی <تصفيق> کم کمه با فرهنگ سازمان بعد با اون واحد میبریمش، با رئیسش با همکاراش آشناش باهم عدید رئیس هم حتما اون گذنش ها دخالت داشته و بعد طرف رو، اگر نیاز به آموزش داره آموزش پیش از استخدام یا ضمن خدمت در واقع چیکار می کنیم آموزشش بدیم و کم کم نیاز رو به مجموع ما میپلی برکنیم این کار assessment center که توضیحه با درمودش صحبت کردم که شیبانی گفتش که اگر میشه برامون یه توضیحی بدید ببینید، سازمان ها میان از کانون های عرضیابی گاهی استفاده میکنن توی چون حزینه برای این کانون ها، اگر نخواد خیلی کامل باشه ها میشه در سایز های کچیکش هم، مثل پیزا ها، آلسه، مینیش هم بهش میگن assessment center ها کانون های عرضیابی ارزبی کار بسیار حرفه ایه. یعنی چی یعنی شما حالا یا یه تعداد گروهی یه نفری نیست یه نفری هم داریم ها و این از یک نفر تا ان ببینید بیشترش اینجوری که مثلا شرکت نب خودرو ها تو همه جای دنیا ها چ از خاان ارزبی وقتی که میخوان تعداد زیادی می جذ کنن به تعداد زیاد. یعنی چی؟ یعنی میگم که آها جون من میخوام که مدیران دیگه فسیل شده، باز نشسته میشم. میخوام مدیران جوان بگیرم. میخوام از بین مثلا هزار تا داوطلب طلب، دو هزار تا سه هزار تا، صد تا نیرو بگیرم. صد تا نیرو جوان بگیرم و اینکه چکاها کنم ببینم چقدر توانم برای کار مدیریتی و اونها رو بیارم تو ساجمان جالشی پروری کنم. توی این کانون های ارزدادی یه سره ارزیاب های هرفهی هستن که اینا چیکار کار یه مودی پروژه وجود داره این مودی پروژه هرمینی که برنامه تنظیم میکنه یه برنامه توی این برنامه من صبح اول صبح که باید برم استخدام شم من و شیبانی و عمیر حسین و سجاد میرید تو این کانون رو اولی که از در وارد میشیم رزومه ما دسته فردیه ما رو میشناسن ما رو میفرستن توی اتاق میگن یه سری آزمون ها رو شما باید تستار کشت کامپیوتر کامپیتر انجام بودید این آزمون ها میتونه هم شخصیتی باشه هم تخصوصی باشه بستگی دی داره بعد از اون میگن توی اتاقای دیگه میشینیم یه مصاحبه داریم مسئله میگم یه کار کارتاکی داریم که بهتون میگم چیه چون برای پست مدیریت آقا و مصاحبه کارتاب ایفای نقش داریم کیس اثبادی داریم که این کیسه میتونه مثلا نقشه یا تودیره رو به ما بده بستگی داره نقش در یک مناقصه و مزایده و بسته به اون کیسه داره و ایفای نقش و کارتاب به مصاحبه و کیسه و بازی, بازی گروهی و امکان داره ابزار های دیگری هم داشته باشه اینو یه سره ابزار ابزاراست بعد وقتی تست ها شازن توی مصاحبه اصولا یک تا دو نفر واش مصاحبه مصاحبه ساختاریافته بعد ببینید این پست مثلا مدیریتی توی شرکت نفت کلی نه, نه اینکه من مدیر من را به انسانی باشم مدیر بخوام بشم اینم وردیه کمپتنسیه قابلیت های رو به اندازه زیر ده تا اصولا شایستگی مثلا تصمیم گیریه مثلا خلاقیت، مثلا تفکر سیستمی و اند، مثلا 5 تا این کامپتنسی ها برای اینجا تو تمام این ابزارها داره چی میشه؟ لعاظیش عرضیابی میشه تو آزمون که به ما دادن اینا رو در واقع میسنجن توی مصاحب اینها رو از ما میسنجن توی اون سوالاتشون توی کارتاب چون تو ما مدیریم میخوان یه کارتاب به شما میدن یه سه نامه توشه مثلا سه تا نامه تو کارتاب لدونه همجی فردیم دن تو باید بخونی نامه را دستور مرتبط بدیم این فای نقش چیه؟ من امیر حسین رو میزن روبرو رو هم یه پیس به ما میدن شما نقش امیر حسین و من نقش شعبانی ما در یک جلسه ای هستیم دو تا کارشناس مثال میدن بازاریابیم کی یه تهاجمیه تو کیسه نمیشه. ما باید جلوی یک دو تا ارزیاب اون تهاجمی رو چکا کنیم به یه مصالحه ای که بالاخره اشتراک مساعی برسی تو بحث مذاکره که شما نبودین گفتین در با تهاجوز ما حالا اینکه چی بدیم شیبانی کیسه جلومونه ولی چجوری مشکلمونو با هم حل بکنیم توامندی معنیشونه و همه رو خلاقیت میتونیم حتی میتونیم چیزش کنیم یه در بزرگ کنیم رو، به ما میگنگ آیا این اجازه رو داریم یعنی رو میخوریم خودمون بهش بالا پر میدیم و با هم وارد جلسه میشیم دو تا نقش میکنیم میشیم پای میز و نقششو نقش خواستم خودمون نقشش کنیم یا اینکه ما 6 نفر منو شیبانی و توتانیان و علی حسین ساجش کنار هم نشستیم میگم شما هیئت مدیره هستید راهی کازی. این کیس رو حل بکنید. یه کیس به ما میدن ما به عنوان هیئت مدیره باید تمورش تصمیم بگیریم. در هر گوشه چهار تا ارزیابی نشسته. هر ارزیابی دو نفر رو ارزیابی می‌کنه. چه حرف می‌زنید کی سرچین میشه؟ تو حرف هم دیگه میپندین یا نه؟ زمانو دقت می‌کنین یا نه؟ چه به نگاه به مسئله درین؟ سیستمی, سیستمی موضوع می‌بنیم یا جزنگریم یا اصلا علیه حسین یه چیزی می‌کنی که اصلا ربطی به موضوع ندار تمام اینا رو چکار می‌کنه؟ تو اون جلسه مورد بازیم قراره حسن خیلی پیچید است این حالا مصابه ناسا یک جورایی <تصحب> نه نه ساز ممودیر سرنتی سال بس داره این کار رو انجام می‌ده پانونهای عرصه اصلا, بابا اصلاً یه مرکز اساسما سنتر داره باز... بازی گروهی چیه؟ این بازی گروهی توش دققا بستگی داره گاهی یک چیزایی به ما میده میگه این بازیه رو مثلا میخواه بیار یه حلقه رو از توی این تنابه بیار بیرون شما باید این حلقه رو که یه مشکلاتی داره بیبین یه موقع یه ماکت به شما میگه بیگه دو تا برگه آشار مقواده دارید <صح> یه قیچی دارید یه چسب دارید این هم دو تا مداد رنگی دارید حالا شما چهارتا که دونه؟ <متصح> <تصح> من و شما عقل کلا و بشین رو بکشیم ما چیکار کنیم هواپیما بعد این هواپیما رو مورد ارزیی که ما چقدر مهندسی اون رو دیدیم چقدر با هم هم فکری کردیم من گفتم دست نزن اون نکن نه اجاشم ولی اصلا من چم با شما تفاهم کنم نه من نقاشیشو روش نمی کشم نه پس ما چیکار دیدین همه شو حرفا هم دیگه نمیخوام چیکار من ارجو میگم شما که سکوت میکنی خود تو یهو اصلا نمیتونه با جو کار اون یکی سرگروح رهبره بیگه بچه اجازه بدین من تقسیم کارم آقای سنتان شما تحرخی رو بکن آقای کاظمی شما به رنگ ها چه رنگی بکن بالش حالا یه حقوقی ما اصلا جنگی بسازین یا مصافبری بسازین چی؟ من میشم رهبر بقیه رو تحت کنترل خودم بگیرم تمام اینا اونجا چی میشه ارزیابی میشه و حتی ابزار های دیگه‌ای هم وجود داره اصلا چند تا مثال بازی بیشتر میزنیم برای خب یه سرش ماکته یه سرش بازیه همینه که مثلا می، میگم یه حلقه این رو میدم به شما دیدید خیلی وقت تو های آموزشی مثلا این رو شما باید ببینید که چجوری از اون میله‌های گرد یا تو تمام تست‌ها منظورتون چی نه. نه، نه، نه، نه،, نه نه نه نه نه نه میخوام هوش شما رو بسنجم خلاقیت آه. شما رو ببینم باعت. حالا یه بازی دیگه چیه یه بازی دیگه مثلا ماکته یکیش اون بازیای مدولیاتیهیش میگن اصلا یه کتاب دارم در میاد در میاد میگم دکتر خود به هم را نمیام باز اینکه طرزه مزخرف میشه ولی یه کتاب در میاد در مورد بازیای گروهیاتی نمیفهمیم برای همین توصیه‌تون می‌کنم بخرید خودم اون کتابو خوندم بخوان شما که بیز مدیریتی نداشته میشین یا کار نکرده باشین خیلی صحح میدینه اصلا هر بازیشو که میتونی نمیفهمه اصلا چی گفته بازی های دیگرش میتونی بازی هندستی باشه رو کاغذ باشه <تصفح> بستگید بازی های کامپیوتری گایی بهتونه شما میشینن پشت سیستم؟ که آسون رو نه نه لزومن شما رو آره یه بازی قرار میدن که شما جمعی باید اون بازی رو به باز یاد فردی فرد نمیکوئه بستگی بدید اگه بازیش گروهی باشه که گروهیه اگه فردی باشه که اصولا بازی رو گروهیه دو نفرم بدیم ولی گروهیه دیگه پیش گفتیم دو نفر که شده میشیم گروه دیگه بازی ها کامپیوتر، بستگی به این داره که از چه نرم افزارهایی استفاده کنن چه اون در واقع مدیر پروژه با حرفه ایداش چه برنامه‌هایی رو برای اون صنعت و بسته مدیریت بچینه دیگه البته با اونا هم تفاهم می‌کنه مثلا با سر کامپتنسه یک سری کار علمی داره قبلش و بعد میاد میشینن من دوستم تو دهه هفتاد رفتش فورد که من سفراهمی مال گروه بهمن بود که ایشون اونجا به من گفتش که من اونجا ارزیابی، توکان ارزیابی قرارشتن، یه هفته ای بود، توی ایران اصولا یه است، چون خیلی حزینه برای حزینه، حتی از این ارزیابا که صبح تا شب میمونن، بعد این فرم, فرم دارن، اینا جمع میشه، آخر وقت یک واشاق میزارن، عکس شما میاد، شیبانی میاد، اونجا رو صفحه. بعد یه تحلیل اولیه کردن چی پوشیده بود کی اولی که من برخوردش چه جوری بود عصبی بود آب نمی‌خورد یه کوچروارش اینجور اینجوری اونجوری می‌کرد یا نه قاشا اومد نشست که من میتونم برم تو تو گفتم بهتون قشن نشه از روزنامه خود یا نه بغیرا رو نگاه که آرامش داشت رو میارن بعد میگن خیر خب توی این ارزیبی نمرش شده تو این چن تو این چن این چن ارزیابو هم نشستان. شاید این ارزیابو به این نتیجه در مورد شیبانی برسن. چون انتهاش یه فحیمه و, و خروجی آزمون ها چون تو نرم افزارم هم میزنه خروجش در میزنه حالا میگن که این شیبانی آخر وقت این آدم شخصیت هم برونگره هست آدمی که تو حوضه مثلا مدیریتی تو پنشتا حوضه کمپیتنسی ستاش توان منده این فرق قابلیتی پیشرفت داره و حاله برنمای توصیحش چیه؟ اگر بخواد که نفعشون رو بگیره این این در عرض مثلا یک سال، در عرض دو سال یه گزارش در مورد شما میاد بیرون که اون به کار فرما بیدن کار فرما در نهای خودش تصمیح میگه که شما رو جذب کنه یا نه یا نه ما اصلا شما رو رد میخوایم میگیم که ایشون اصلا برای پست موده، ایشون میتونه کارشناس خوبی باشه شهبانی بیشون کارمنده خوبی باشه اصلا لبل مدیریتی رو به... نباقشون بر من اصلا کلیان از چیز چی میشم اون گروه خارج میشه مستان این عرضیابای حرفهی ای؟ دوره دارن نه دوره های حرفهی دارن یک در واقع اینکه چجوری فقط روانشناسی هم نیست چیزهای مختلفی رو باید بیاموزن چون قضاوت مجبورن بکنن و اینکه حتی اینها هم همه عرضیابا تو هر پرو وقتی که بحث علمیش تموم میشه خودشون یه دوره دارن نه. میشینن در مورد نفت و این کامپتنسیه که در اومده با هم هم فکر میشن چون شما یه جا داری مساهبه میکنیم، من یه جا دیگه من شما باید, باید یه برداشت و یه استانداردی به هم نزدیک بشیم که آدم ها رو چپا کنیم مصاحبه کن برای اینکه خطا و ناعدالتی خطا رو کم کنه و ناعدالتی رو چپا کنه از بین ببین توله تعریف نظام پرداخت بریم استراحت کنیم چون خستگی میشه چشاتون هم اینجوریه چرا من 140 خب من سه خوابیدم دیشب چاتون خالی مهمونی بودم بعدم مهمونا رو بودن خونه خودمون سه خوابیدم اصلا پنجرهم بلند شدم تازه کولر آب کولرمون هم خالی نکردم در معطل آب کولرمون هم خالی کردم چون یخ میزد خلاص دیر خلاص کلی کارم انجام دیدین منو خسته شما خسته Če so ampelje se še